آرشا در آوانسیان پخت بالاخره علاج همه بیماری ها کشف گردید خامخاری یگانه علاج همه بیماری هاست پخت خاری عادتی از غلط و مرگاور که باعث بیماری ها و همه بدبختی های انسان ها می شود پخت خاری, گوشت خاری و داروخاری عاملین اصلی همه بیماری ها هستند که در بیمارستان ها انجام می گیرند خوراک پخته اصلا غذا نیست بلکه سم است و توفاله و بیماری و مرگ در دنیا کمبود غذای وجود ندارد بلکه ازدیاد غذایی وجود دارد غذای موجود با آتش محو می شود یک نسخه برای همه بیماری ها پخته نخورید حیوانی نخورید هر غذای خام گیاهی که دوست دارید را بخورید تهران پخته خوری یک عادت مرگاور باعث همه بیماری ها فهرست اکس الامل. سرطان چیست؟ بیمارستان یعنی کارخانه بیماری سازی گرسنگی قتل آم علم پزشکی فقط خامخاری مطلق سلامتی می آورد. آزمایشگاه طبیعت راست می گوید یا آزمایشگاه پزشکان سرگزشت جمعیت خامخاران چند نامه و بیوگرافی از بیماران معالجه شده اکس الامل. من از خوانندگان مخصوصا خواهش میکنم مسئله عکس را خوب مطالعه کرده و معنی آن را دقیقا درک کنند که خیلی مهم است در کتاب خامخاری گفته شد که بیماری با دو جنبه ظاهر میشود یکی علائم ناقص کار کردن ارگانها در نتیجه غیر کافی بودن غذای طبیعی و دیگری مسموم شدن آنها توسط غذای پخته و داروهای شیمیایی است ناقص کار کردن ارگانها مانند مرض قند قلب کلیتش نفرید زخم معده یا سل کمخونی پارگی فتخ و مانند آنها ظاهر می شود و مسمومیت ارگان ها فشار خون نقره سیاتیک دیسک تشنج و غیره را به وجود می آورد بدین ترتیب که هر روز با غذای پخته یه مقدار مواد سمی وارد بدن می شود اگر این سم تماما در بدن باقی می ماند در عرض چند ماه شخص را مسموم می کرد و میکشت بدن سعی می کند قسمت عمده از آنها را دفع کند. برای این کار بدن وسیله ها و راههای مختلف پیدا می کند. جوش، چرک، درد، اسهال، خارش پوست و تب علامت اکسالمل شفابخش بدن است که همیشه سعی می کند مقداری سموم را از بدن دفع کند. هیچ پختخاری و هیچ پزشک پختخاری معنی این اکسالملهای بدن را نمی داند. هم بیمار و هم پزشک این علائم را بیماری تصور می کنند. پزشک با سموم مختلف سعی می کند این اکسالملهای شفابخش بدن رو قطع کند سموم دفع شدنی را به جای اولیه خود برگرداند و چند سم دیگر هم روی آنها اضافه کند این از کار پزشکان پختخار آنها عوض اینکه بیماران را شفا بدهند عکسالعمل شفابخش بدن را قطع می و بیمار را بیمارتر می سازند. از اینجا تجارت قرص، آمپول و شربت به میدان می‌آید. کار از یک قرص شروع می شود. چون روز به روز ناراحتی سنگین تر می شود، این یک قرص به زودی به 20 قرص می رسد. این از پیشرفت علم پزشکی. من خوب به یاد دارم در بچگی وقتی پزشک دارو تجویز می کرد، داروساز و گرد دارو را با هم مخلوط می کرد. توی کاغذهای کوچک میپیچید و به ما میداد. اکنون همه می بینند که این داروها و آمپولها مثل سیل دنیا را پوشانده است. هیچ کدام از این داروها به غیر از اینکه اکسالمر شفابخش را خونسا و مردم را مسموم کند قادر نیست کار دیگری انجام دهد. به نظر بعضی مردم هر پزشکی که بیشتر و گران دارو تجویز کند، معروفتر شناخته می شود و شهرت او بالاتر می رود خواننده عزیز، مسئله اکسالمر شفابخش را خوب به یاد بسپارید. موقع پختخاری اکسالمرای بدن زود زود تکرار می شود مقداری از سموم دف می‌گردد. شما دو مرتبه پر کنید. بدن دف می کند و شما وارد می کنید به این ترتیب عکسال عمل ها بیماری ها دائما ادامه پیدا می کند. یعنی شما همیشه بیمارید. همیشه به پزشک مراجعه می کنید به پزشک پول می دهید به دارو فروش پول می دهید. دارو نیز کار خود را انجام میده و عکسال بدن را قطع می کند. شما خوشحال هستید دارو شما را معالجه کرده. پزشک شما را از درد و بیماری نجات داده. چند روز دیگر درد سنگین تر شروع می شود. طبیعت نمیخواهد که بدن شما به این زودی مغلوب شود. داروها رفته رفته بیشتر میشوند تا متفقا با سموم غذایی شما را از این دنیا مرخص میکنند. شما در دهها سال پختخوری دائما سموم زیادی در جاهای مختلف بدن جمعآوری کردید. اینا رو باید از بدن بیرون کنید تا به سلامتی کامل برسید. وقتی شما خامخوار میشوید سلول های زائد که فقط با غذای پخت تغذیه میکنند گرسنه مانده و میمیرند. سموم حل شده دف می و وزن بدن سریحا پایین نیاید سم در سه حالت در بدن موجود است یک مایه دو نمایه و نجامد یعنی کلوید سه جامد مایه نسبتا زود دف می گردد نمایه و نجامد که کلومی نامیده می شود مدتی در خون باقی مانده و ناراحتی های مختلف ایجاد می کند. جامد که از همه مهمتر است که از همه مهمتر است در شش پا مفاصل ستون فقرات رگها و مویرگ ها نفوذ کرده و مرحله به مرحله حل می شود سمی که داخل بدن شده به طرف خون هجوم می آورد تا دفع گردد و خون خامخار را مسموم میکند او را یک مدت بیمار و احتمالا دو سرگیجه ضعف درد اسهال بیشهایی و غیره میکند اینجا است که شخصی که تازه خامخار می شود باید خوب توجه داشته باشد که این قبیل اکسالامالا هستند که سموم بدن را دفع می کنن. یعنی خود بیماری را دفع می تا او را از همه ناراحتی ها نجات دهند من خودم که تا پنجاه و سه سالگی همه نوع بیماری جمع کرده بودم و تمام بدنم پر پرسم بود از خامخ... بعد از خامخاری اکسالامالا شدید مانند ضعف، سرگیجه، سردرد، د کمر درد، زانو درد، گردن درد، بیشته هایی، تب و خیلی عکسال املهای دیگر داشتم بعد از خام چقدر اکسال املهای شدید داشتم دردها کشیدم ولی یک دقیقه هم شک نکردم هیچ کس راجع به به من چیزی نگفته بود هیچ جا نخانده بودم فکرم هم ب... اه... هیچ جا نخانده بودم فکرم به قدری روشن بود که فکر کردم من که غذای طبیعی میخورم و غذای طبیعی مثل سیب یا پرتقال نمیتونه به من ضرر برسونه پس این همین سموم است که از بدن دفن میشود بگذار هرچه میخواهد بیشتر درد کند که زودتر بدنم از سم خالی شود تا من از این یا زودتر نجات پیدا کنم تحمل کردم و موفق شدم اطرافیانم میگفتند این بیچاره دیوانه شده همین امروزفردا میمیرد ولی من مثل خاره ایستادم و به حرفهای آنها وقفی نگذاشتم تحجاب من از این است که راجه به اکس دلمال انقدر صحبت کردم و نوشتم باز هم بیشتر مردم که میخواهند خامخاری را شروع کنند میگویند میخواهم خامخاری را امتحان کنم این قبیل اشخاص که میخوان خامخاری را امتحان کنند معلوم است که معنی خامخاری را هنوز درک نکردند. هنوز به دانایی طبیعت ایمان نیاوردند و غیر طبیعی و مزر بودن پخت و پذ را درک نکردند. از همه بدتر میخواهند که فایده خامخاری با علم ثابت شود علمی که غذای زنده طبیعی و کامل را با آتش میکشد و برای ما غذای شیمیایی میسازد و با این علم احمقانه ها دلار پول جمع می کند بیشتر پزشکان فهمیدند که این کار جز حقه بازی چیز دیگری نیست ولی باز هم آن را ادامه میدهند به بهانه اینکه که چه یاد گرفته‌اند را اجرا میکنند. من چند دفعه نوشتم کسی که کامل است و چیز پخته ای نمی خورد هر ناراحتی و هر بیماری به اسطلاح بیماری که احساس کند عکسالعمل شفابخش است و باید خوشحال باشد که دارد معالجه می شود سمومی را که در عرض دهها سال وارد بدن کرده دارد دفع می کند مردم چه فکر می کنند؟ این سم که در همه جای بدن نفوذ کرده چطور باید از بدن خارج شود؟ باد که نمی برد سم از جاهای مختلف بدن با درد فراوان کنده می شود به طرف خون جاری می شود و با درد با مدفوع با ادرار با عرق کردن با جوش با خارش و غیره از بدن دفع می گردد کسی که می خواهد خامخاری را امتحان کند معلوم است که دانایی طبیعت ما ندارد و می خواهد صحت قانون طبیعت را امتحان کند او میگوید ببینم خامخاری با بدن من سازگار است یا نه و وقتی اکسالعمل شفا شروع می شود این آدم خیال می کند که خامخاری به او ضرر رسانده است. راجع به اکسالعمل شفابخش هم اگر خاننده فراموش کرده و یا معنی آن را درک نکرده است وحشت زده پیش دکتر می رود. دکتر هم بلافاصله خون و ادرار او را به آزمایشگاه می فرستد. خون بیمار در مدت عکسالعمل به قدری زیاد اسیدوریک نشان می دهد که دکتر در عمرش ندیده بود. او وحشت می کند چون نمیداند که این اسیدوریک از بیرون وارد خون شده یا اینکه از بدن کنده شده و به طرف خون آمده است او فقط انقدری میداند که این آدم خامخاری کرده و بیمار شده است چند نوع گرس می دهد و قدغن می که دیگر هیچ و خامخاری نکند بیمار نیز خوشحال می شود چون کباب و غرم سبزی در انتظار است شنره اسکوف ارامنه ترکیه کتاب سفارش می‌دهد مبلغی پول هم هدیه می‌فرستد و خامخار می‌شود 20 روز دیگر وقتی عکس العمل شفابخش شروع می‌شود می‌نویسد متاسفانه خامخاری به بدن من نساخت مجبور شدم ول کنم و دوباره پخت خار شوم چه انتظاری باید داشت خواننده عزیز خوب توجه کنید من گفتم و باز هم می‌گویم کسی که خامخار شد و هیچ وقت پخته نخورد، هر ناراحتی و هر دردی که احساس کرد، عکسالعمل شفا بخش یعنی خود علامت معالجه است. هیچ وقت نباید ای شک داشته باشد. باید تحمل کند تا این اکسالمل تمام شود. بعد از هر عکسالعمل مشابه، شخص احساس می کند که ده پانزه سال جوان تر شده، یعنی ده پانزه سال طول عمرش زیاد شده. پس اگر کسی میخواهد را امتحان کند، باید این اجسام عملهای شفابخش را تحمل کند و وقتی آنها تمام شدند آن وقت نتیجه خامخاری را مشاهده خواهد کرد. باز هم مجبورم مسئله عکس العمل شفابخش را تکرار کنم تا هیچ کس نگوید نخواندم، ملتفت نشدم، توجه نکردم و از این قبیل حرفا. کسی که خامخاری را شروع کرد باید انتظار عکس العمل شفابخش بدن را داشته باشد. این عکس العمل برای همه یکسان نیست. بدن هر خصوصیت خاصی دارد. برای دفع سموم بدن سعی می راههای مناسب و جاهای ضعیف را پیدا کند اسیدوریک در, در هر کجا که حل می شود مانندش از سپا، مفاصل، بین مهره های ستون فقرات، زانو، گردن و خیلی جاهای دیگر در آنجا دردی شدید به وجود میآورد گاهی شخص شخص، دل دلدر، نفق، اصحال، سرگیجه، سردر، جوش خارش، خوش شدن ناهیه های از پوست و غیره می شود. گاهی موها و ناخونهای ضعیف می و جای آنها را مو و ناخن تازه و سالم پر می کند. همه پزشکان این اکسولمالوی شفابخش را بیماری تصور می کنند و داروهای سمی به کار می‌برند. راجع به بدن خیال می به اندازه کافی نوشته باشم. به طوری که مردم حق دارند بگویند که کتاب تکراری است. خیلی آرزو دارم مردم همین حرفهای تکراری را خوب درک نمایند. هر کس خامخار می شود و غذای پخته نمیخورد، هر ناراحتی و هر دردی که احساس کند یعنی به تشخیص پزشکان بیمار شود نه فقط نباید به بلکه باید خیلی هم خوشحال شود که دارد از بیماری های خود نجات پیدا می کند و سمومی را که در بدن جمع کرده را دفع می کند سلول های زائد را حل می کند و خلاصه به سوی سلامتی کامل پیش می رود. اینقدر که راجب شفا بخش صحبت کردم، امیدوارم بعد از چند هفته یا چند ماه خامخاری نیایند بگویند که آ آوان آوانسیان ضعف دارم سرم گیج می‌رود چه کنم یا آیا آوانسیان پای من درد گرفته است چه کار کنم من می پرسم کتاب خامخاری را مطالعه کردید جواب میدهد آری می پرسم راجع به عکسالعمل شفابخش کمی مطالعه کردید جواب میدهد آری می گویم پس چرا می میگوید این عکسالعمل است نمیدانستم. حالا این خوب است که پیش من میآیند؟ بعضی که وحشت،, وحشت کرده پیش دکتر رفته و با یک مقدار سم یعنی دارو برمیگردند دکتر، پزشک، دانشمند چه حرفای گندگنده گنده؟ اگر من بگویم نادان، بیعقل و جانی همه مرا را مذمت می کنند که بیخود به پزشکان محترم توهین میکنم. ولی مقصود من توهین کردن نیست به نظر من گفتن حقیقت گناه نیست من فقط حقیقت را می مهندس بدن انسان طبیعت برای بدن ساخت خود غذاهای گیاهی خام را تعیین کرده است کسی که قانون ابتدای طبیعت را نشناسد او نادان است کسی که میشنود غذای پخت ارزش غذایی ندارد و فقط منبع بیماری است اما وقع نمیگذارد میگذارد او بیعقل است کسی که غذای طبیعی را برای مردم قدغند میکند او یک جانی و آدم کش جنایتکار است شما چه لقبی می‌دهید به آن کسی که به گاو و گوسفند یونجه خام را قدغن کند و به آنها یونجه پخته بدهد و یا به شتر خار پخته بدهد خار بیابان غذای طبیعی شتر و میوه زنده غذای طبیعی انسان است وقتی یک پزشک مصرف میوه خام را برای مردم قدغن می می‌کند او هم نادان است هم بی‌عقل و هم جانی وقتی یک پزشک این حرف را میخواند و باز هم مصرف غذای خام را برای بیماران قدغن می کند او دیگر تمام دیوانه است سرطان چیست؟ همانطور که در کتاب اول نوشته هم پخت خار دارای دو بدن است بدن اصلی و بدن دروغی بدن دروغی از خوراک های پخته به وجود می آید و با خوراک های پخته تغذیه می شود. یاخته شناسان خیلی تلاش کردند تا فرق بین ساختمان یاخته های سرطانی و طبیعی را بشناسند یگان فرقی که آنها توانستند پیدا کنند این بود که سلول های سرطانی شکل کاملا ساده ای داشته و فاقد هر گونه دستگاه های تخصصی برای انجام کارهای مفید می باشند یگان هدف این سلول این است که عقب پروتئین بگردند آن را ببلند و تولید مثل کنند همانطور که می‌دانیم سلول‌های زائد پخته‌خوارها عین همین خاصیت را دارند فقط یک درجه فرق بین آنها وجود دارد به این معنی که بدن اصلی سلول‌های زائد را به, به نحوی زیر کنترل خود نگاه می‌دارد و آنها را به جای, اصل، به جای خالی بدن مثلا زیر پوست جلوی شکم آقایان و پاهای خانم‌ها پخش می‌کند بدن اصلی برای نگاه داشتن حجم ضرور، ضروری ارگان ها مجبور است این سلول های زائد را قاطی سلول های اصلی کند و بدین طریق موقتاً تن ما شود که آنها فشار خود را روی یک ارگان متمرکز کنند و آن را از کار بیاندازند. هم سلول های زائد و هم سلول های سرطانی از همین غذاهای پخته به وجود می آیند که شخص حریص و معتاد در آشپسخانه خود با دست خود تهیه می کند. سلولهای زائد قادر نیستند مقدار هنگفتی غذای غیر طبیعی را که از راه اعتیاد هریسانه وارد بدن پختخارها می شود تماما جذب کنند. قسمت زیادی از آن با کوشش دفاعی بدن میسوزد، به حرارت زائد تبدیل می شود و بیفاید ناپدید ناپدید میگردد. یک قسمت از سلول های زائد سعی می کنن استقلال پیدا کنند تا بتوانند یک تا بتوانند این خوراکهای زائد را تماما ببلعند. وقتی که یک یا چند تا از این سلولای زائد در تلاش خود موفق میشوند و استقلال به دست میآورند به یک صورت باور نکردنی شروع به بلعیدن خوراکهای زائد میکنند مخصوصا اسیدامینهای گندیده ی حیوانی که ارباب پرخور به آنها تعارف میکند به همین طریق از یک یا چند سلول ناچیز شروع شده یک هیولا به وجود میآید که تمام دنیا را به وحشت انداخته است یک شخص واقبین که فکر خود را همیشه با مسائل اساسی مشغول نگاه می‌دارد نمی‌تواند تعجب نکند که دانشمندان در تحقیقات و مطالعات خود برای چه مسائل پوچی وقت، انرژی و پول مصرف می‌کنند آنها در تحقیقات خود راجع به وجود آمدن سرطان 400 نوع ماده سرطان‌زا جمعآوری کردند که هیچ کدام از آنها به غیر از مسئله تغذیه کوچکترین رابطه‌ای با عامل اساسی سرطان ندارد هر کس باید از خود سوال کند که خیلی خوب فرض کنیم سموم مختلف اشعه تحریکات مزمن آسیب بدنی سوختگی ویروس نیکوتین غیر و گروهی چیزهای دیگر میتوانند سلول ها را از وظایف خود بازدارند دارند با آنها ضرر بزنند آنها را ضعیف سازند له کنند بکشند و از بین ببرند ولی کدام عامل سبب میشود که به یک یا چند سلول چنان نیروی عظیمی برای رشد و تکثیر بدهد که قادر شود در مدت کوتاهی ساختمان شگفتانگیز بدن انسان را زمین بزند و به هلاکت برساند این نیروی وحشتناک را خود صاحب بدن با دقت هرچه تمامتر برای نابودی خود در آشپزخانه میآفریند پس هر لغمه غذای پخته سرطانزاست یعنی همه لغمههای غذاهای پخته متفقاً سرطان را به وجود میآورند. در حین مطالعات خود دانشمندان با عامل اصلی سرطان به دفعات زیاد برخورد می کنند. مدرک این در دست می گیرند مدتی به آن خیره می شوند حتی تایدم می کنند ولی همین که صحبت از تغییر تغذیه به میان میآید آنها وحشت زده چشمان خود را سفت بندند و مثل رعد زده ها فرار می کنند. چرا اینطور است؟ چون که آنها در عادت تغذیه خود نمیخواهند چیز غیر طبیعی ببینند؟ مخصوصا از نان که هر روز می خورند و از زمانهای قدیم غذای اصلی و حتی مقدسی حساب شده نمی انتقاد کنند نمی ببینند که نان طبیعی خود گندم زنده را با پوست گرفتن آرد کردن خمیر کردن و پختن چندین بار حرام کرده اند یاخت شناسان آشکارا می بینند که یاخته های سرطانی فاقد دستگاه های تخصصی و توانایی فعالیت مفید ندارند. به نظر آنها سلولای اشخاص به اصلاح سالم آنها خبر ندارند که بین پختخار را حتی یه نفر انسان سالم هم وجود ندارد. اول کامل و بی بوده و سپس در اثر بعضی مواد سرطانزا صفات طبیعی و قدرت اختصاصی خود را از دست می دهند. به عبارت دیگر به نظر این یاختشناسان نبودن ماشین تخصصی و نقص در کار تولیدی به هر نوع عامل اتفاقی مربوط می باشد به غیر از مواد اولیه‌ای که مهندس طبیعت برای کارخانه بدن انسان ساخت خود تعیین نموده است این آقایان نمی توانند ببینند که چطور هر روز مقدار زیادی سلول های مرده سمی بیارزش و توخالی به عنوان غذا وارد بدن پختخارا می شود شناس معروف آمریکایی به نام کاودری کلیه مدارکی را که دانشمندان دنیا در مطالعات خود به دست آوردن کرده و در یک کتاب قطور تحت عنوان سلولای سرطانی جمعآوری کرده است. یک خاننده واقعی می تواند به آسانی ببیند که تشخیص علت اصلی سرطان به چه اندازه روشن و آشکار است. ابتدا این کتاب به زبان روسی به دست من افتاد، بعدن برای کتاب انگلیسی خامخاری میخواستم از اصل کتاب استفاده کنم با زحمت فراوان موفق شدم یه جلد کتاب اصلی از آمریکا وارد کنم در اینجا چند قسمت از این کتاب را برای خاننده می آورم کاودری می نویسد با از دست دادن یک قسمت یا کلیه دستگاه تخصصی در سلول یا سرطانی به همین نسبت از قدرت تولیدی آنها کاسته می شود بدون دستگاه های لازمه انجام وظیفه ممکن نیست. صفحه یازده کادری خبر ندارد که برای ساختن دستگاه‌های تولیدی سلول‌ها به مواد خام احتیاج دارند و وقتی مواد خام به مواد پخته تبدیل می‌شوند برای یاخته نه ساختمان میماند و نه انجام وظیفه مفید کادری از راچ اقتباس می‌کند و می‌نویسد سلولای طبیعی دارای دستگاه‌ها و ماشینهایی هستند که کامل بودن آنها را مشخص می‌کند عملیات این ماشین‌ها وقتی وسایل ساختمانی آنها به حدود معینی میرسد، به حد می میرسد. تو صفحه 159و گفته. و در جاهای دیگر می‌نویسد در راه به سوی سرطان سلول‌ها یک یا چندین استداد فعالیت خود را از دست می‌دهند یعنی تغییرات ارسی می شود برای اینکه به استقلال کامل برسند مجبوراً چند دستگاه و وسایل مفید از دست بدهند. تخم و نطفه چون سلول های کامل هستند به سرطان تبدیل نمی‌شوند. تو صفحه گفته. مهمترین فعالیت سلوله سرطانی این است که دائماً مواد هیدروژنی شکار کنند پروتئین حیوانی ببلعند آمین و را ببلعند و پروتئین مصنوعی بسازند و خیلی زرنگیهای دیگر انجام دهند سلوله سرطانی مانند تله هیدروژنی از ذخیره بدن عسید ها را بیرون میکشند و بر نمیگردانند کادری سپس در چند سطر دیگر نویسد، چنین به نظر می رسد که متابولیسم هیدروژنی سلول سرطانی در پیشرفت خود سعی می موادی را که سلول های فعال بسیار احتیاج دارند از آنها برو بایند. نویسنده پروتین حیوانی را برای بدن خیلی لازم می داند. و هندرسون خیال می کنند که برتری در جمعآوری آمینه ها توسط سلول سرطانی و رشد بیندازی آنها در یک موجود ضعیف یک عامل مهم می باشد. به خیال آنها ضعیف شدن بدن در نتیجه کمب اسیدامین های حیوانی میباشد نه از کم بوده طبیعی سلول سرعتانی سرطانی پورتین پرتین می سازند، سنتز میکنند کنند. کارداری می نویسد گاهی مشاهده شده که سرطان بدخیم همراه با سنتز غیر طبیعی و حتی همراه با به بوجود آمدن پورتین غیر طبیعی جلو می روند برای رشد قده سرطانی پوست پرتین های تازه ظاهر می شوند و حالان که در شرایط طبیعی سنتز با تجزیه کنترل می شوند. یعنی از یه طرف سلولای تازه به وجود می و از طرف دیگر می میرند. سپس کابدری از گاسپرسون می آورد. به نظر می رسد که بین سلولای بدخیم سرطانی و سلولای نرمال مربوط به پیشرفت سیستم پورنت سازی یا فرق وجود داره در سلولای قده بدخیم بسکاهای جلویی که معمولا در فعالیت سیستم پورنت سازی یه حدودی معین می کنند کم و بیش از کار میافتند. پروتئین و بازم پروتین، خواننده عزیز، این همین پروتئین است که آقایان پزشکان مصرف آن را شب و روز به بزرگ و کوشک توصیه می کنند. همانطور که می بینید این پروتئین ها و این اسیدامینه ها به درد قده سرطانی می خورند. کادری تصیق می کند که سلول های بدن انسان، بیر قابل تصوری شخصیت های کوچک و پیچیده هستند که شاید از بیشتر از ده هزار قسمت مختلف تشکیل شده اند. فرمولای ریاضی 4 و پنج عضو ترکیب کننده کاری است بسیار مشکل. چطور ممکن است با هزارا عضو گوناگون معامله کرد؟ تو صفحه 151 و 152 اینو گفته. بله، زیستشناسانی که از ساختمان و فعالیت یک سلول اینقدر کم اطلا دارند، سرنوشت تمام مردم را در دست گرفتند. حساب مهندس اصلی طبیعت را به آتش سپردند و خیال می که میدانند این سلول روزانه چقدر چربی، مواد نشاستهی، پورتین، ویتامین و غیره احتیاج دارند. با این حساب پوچ، غلط و خطرناک هم مغز خود و هم مغز مردم زودباور را به کلی خراب کردند، یاختشناسان بیشماری گواهی جمع کردن که نشان میدهند کمخوری در به وجود آمدن سرطان یا روی رشد آن اثر دارد. در زمان جنگ بین الملل، در نتیجه جیروندی ها در دامارک، روسیه، آلمان و اتریش، تلفات سرطانی کمتر شد. به نظر هیندهد، پرخوری در رویدادهای سرطانی اثر زیادی دارد. کادری،, نش... کادری از تجربیاتی که روی حیوانها انجام گرفته، نمونه هایی مک کی نشان می دهد که محدود کردن تغذیه از بروز سرطان جلوگیری می کند و یا از سرعت رشد می کند پیوند سرطان به موشهای پرخور به مقدار غذای خورده شده یا آنها بسید دارد موشهایی که با غذای محدود زندگی می کنند پیوند سرطان را به مراتب سختتر از موشهای پرخور قبول می کند. مک مککی و دوستانش روی موشهایی مطالعه کردند که به قدری کم غذا می خورند که فقط نمی میرند ولی رشد هم کنند. یک دسته از آنها را 700 روز و دسته دیگر را 900 روز جوان نگاه داشتند و نگذاشتند که آنها به بلوغ برسند در صورتی که در شرایط معمولی طول عمر آنها 600 روز است وقتی به این موشها مجددا به حد کافی قضا دادند بیش, بیش از 1400 روز یعنی بیشتر از دو برابر طول عمر طبیعی زنده مانند مدارک بعدی نشان داد که بین 198 موش که با رژیم به اسطلاح نرمال تغذیه می کردند 150 مورد سرطان مشاهده شد ولی بین 200 موش کمخوراک فقط 38 قده سرطانی دیده شد آنها به دفعات تلاش کردند از دفاتر بیمه مدارکی به دست آوردند که نشان دهد رابطه بین وزن, وزن بدن و مرگ و میرهای سرطانی وجود دارد 7.740.672 بیمنامه بررسی شد. در هر صد هزار سند برای وزن بالاتر از نرمال 37 وزن نرمال 32 و کمتر از نرمال 24 مرگ نشان داده شد. یک حساب خیلی قابل توجه ولی قابل تأسف برای مدت 50 سال از 1900 میلادی تا 1950 همزمان با پیشرفت علم پزشکی و به موازات آن پیشرفت مرگ و میرها از سکت و سرطان از این قرار است در مدت پنجاه سال برای یکصد هزار مرگ از سرطان از شست و چهار به صد و همچنین و نو ممیز شش رسیده همچنین بیماری های قلبی از دیویست و به چار و و ممیز یک یعنی تقریبا دو برابر رسیده است حالا جالب تر از این در 1964 یعنی در مدت 14 سال مرگ در نتیجه سرطان از 139, 139 ممیزه 6 به 151 ممیزه 3 در 100,000 نفر رسید همچنین در بیماری های قلبی از 478 ممیزه به 58 ممیزه 6 رسید این صورت‌ها را دانشمندان آمریکایی از دفاتر رسمی شرکت‌های بیمه به دست آوردهند و هیچ خجالتی هم نکشیدهاند. حالا حساب کنید اگر با همین سرعت جلو بروند، بعد از پنجاه یا 100 سال به کجا می رسند؟ بین حیوان‌های آزاد در محیط طبیعی سرطان شناخته نشده است. بعد از اینکه میمون‌های اسیر را مدتی طولانی با غذای غیرطبیعی تغذیه نمودند، یک یا دو تا قده سرطان در آنها مشاهده شد. در عمق دریاها آنجا که دست خرابکارانه ی انسان انسانها نرسیده است قده سرطانی به کلی نایاب است. کادری تصیق می کند که کیفیت غذا در بروز سرطان خیلی موثر است. او مینویسصد بالاخره حقیقت عشکاران نشان میدهد که حیواناتی که با غذای طبیعی تغذیه می کنند به سرطان کمتر تمایل دارند تا آنهایی که با غذای کاملا تصفیه شده تغذیه می کنند. یگان دسته بزرگ از موجوداتی که از سرطان مسونند در عمق دریاها زندگی میکنند این حقیقت بیشتر اهمیت پیدا می کند به دلیل اینکه جمعیت موجودات دریاها سه برابر موجودات روی زمین است متاسفانه اکنون مردم به صلاح متمدن آب دریاها را نیز مسموم میکنند بالاخره حین این جستجو زیستشناسان با عامل اصلی سرطان روبرو میشوند با آن نگاه میکنند حتی تصدیقم میکنند ولی با تمام بیعلاقگی و خونسردی از کنار آن رد میشوند مثل اینکه خاصه ای آنها چیز دیگری است. کاو دری مینویسد عقیده ای که مصرف زیاد بعضی مواد غذایی یا فقدان آنها می‌تواند در بدن انسان سبب سرطان شود، کم کم زمینه پیدا می‌کند. آنها اثرات غذای طبیعی را صریحاً می‌بینند. کاو می نویسد به مدارکی به دست می‌آید که نشان می‌دهد بعضی حیوانات که با غذای طبیعی تغذیه می‌کنند، کمتر مبتلا به سرطان می‌شوند تا آنهایی که با غذای تصفیه شده تغذیه می‌کنند. این غذای تصویه شده از کازین، مواد نشاسته‌ای روغن دانه پنبه، ویتامین و مواد مدنی مصنوعی تشکیل می شود. از سهر موش جمع می کنند که صد در صد از سرطان مسون هستند. آنها را در قفصه زندانی می کنند. با غذای به اصطلاح استاندارد آنها را تغذیه می کنند. آنها را با همدیگر به جفگیری وامی دارند و نمی گذرند آنها با هیچ نوماده سرطانزه فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیکی تماس پیدا کنند با وجود این 80 درصد این موش ها خود به خود و به دلیل نامعلومی به سرطان مبتلا می شوند خیلی تعجب آور است که چطور کاودری نمی بیند همین محیط غیر طبیعی و غذای غیر طبیعی باعث سرطان می شود زیدشناسان 400 آمل سرطانزه پیدا کردند با وجود این کافدری می نویسد در همه غده های سرطانی که پزشکان مطالعه کردند کمتر از یک درصد آنها احتمالاً با این آملهای سرطانزا روبرو بودند. در مقابل این, در مقابل این ما دیدیم که چطور غذای غیر طبیعی از 100 موش سالم 80 موش سرطانی به وجود می آبرد. در یک آزمایش دیگر از 198 موش 150 تای آنها سرطانی می شوند. با محدود کردن نسبی غذا این رقم از 150 به 38 کاهش می یابد. حالا ببینیم با وجود این همه مداره که ارزنده زیستشناسان به کدام نتیجه رسیدند کاودری به یک نتیجه باور می رسد او میگوید پیاده کردن همه این مطالعاتی که روی حیوانات انجام گرفته بر روی انسان به احتیاط, لازم، به احتیاط نیاز دارد انسان یک موجود همه چیز است که از هر طرف دنیا جور به جور غذاهای خیلی غذاهای مختلف جمع می کند ولی موجودات دیگر از گیاهان ساده محلی تغذیه می کنند. طول عمر انسان خیلی زیادتر از حیوانات آزمایشگاهی است چسبیدن به این رژیم فرزی برای سالای زیاد یعنی تقریبا یک چهارم قرن که پیشرفت پنهانی سرطان احتیاج دارد عملی نیست آقای کافدری و شرکا، شما پیدا کردید که غذای طبیعی از سرطان جلوگیری کند. به عبارت دیگر غذای غیر طبیعی باعث این بیماری های خطرناک می‌شود. آیا مهمتر از پخت و پز، چیزی است که غذای طبیعی را به غیر طبیعی تبدیل کند؟ چرا آزمایش ها و مطالعات خود را ادامه می دهید؟ شما در حقیقت عامل اصلی بیماری خطرناک سرطان را کشف کردید دیگه دنبال چی می گردید؟ کدام عامل مهمتر از پروتئین حیوانی و اسیدامین های حیوانی می توانند این دیوه شیطانی را در بدن انسان به وجود آورند؟ این پروتئین و این اسیدامین هایی که به بچه بزرگ به بیمار و ناتوان با بلند توصیه شما عامل سرطان رو پیدا کردید پس چرا این خبر مهم رو به اطلاع عموم مردم نمیرسونید برای مردم دلسوزی میکنید که مبادا از لذت غذای پخته محروم بمانند شما اشتباه میکنید که فکر میکنید با روز سرطان بیست سال وقت میخواد نه آقای کاف داری. فقط یه ثانیه لازمه که یک سلول از همسایه خود جدا شده و به سرطان تبدیل شود آیا شما هیچ بچه ای را سراغ ندارید که با سرطان به دنیا آمده باشد شما به بچه دو ساله سرطانی برخورد نکردید؟ مطمئن باشید اگه مطمئن صنعت پخت و پز و داروسازی مردم, دارو مردم متمدن با همین سرعت پیشرفت کنه چند نسل دیگر هفتاد درصد مردم مثل موچهای آزمایشگاهی با سرطان به دنیا می آیند. شما حقیقت را اعلام کنید؟ بگذارید مردم خودشان تصمیم بگیرند که آیا آنها میخواهند با غذای طبیعی سالم تغذیه کنند یا با غذای غیرطبیعی و خطرناک خودشان را به هلاکت برسانند خیلی عجیب است ببینید چطور این پزشکان و شناسان گمراه شدند که هنوز نفهمیدند پخت و پز عاملی از غلط و خطرناک که قانون طبیعت را پایمال میکند و باعث همه نوبت بختی های مردم میشود کاودری آن چیزی را که دنبالش میگشت در دست خود گرفته و باز هم در تاریخی جستجوی خود را انجام میدهد. اکنون همه جا از خطر سیگار صحبت میکنند. سیگار سم میدارد به اسم نیکوتین. این سم نمیتواند سلول بسازد. پروتئین گوشت, ول... گوشت و لبنیات است که قادرند سلول بسازند. وقتی بدن برای ساختن سرطان آمادگی پیدا می کند و حاضر می شود برای پیدا کردن یک محل ضعیف و مناسب جستجو می کند تا از آن، تا از آنجا کار خود را شروع کند. ریه ریه که از اثر نیکوتین ضعیف شده، جای مناسبی برای بروز سرطان میشه، معمولا قسمتهایی از بدن که بیشتر در حرکت هستند یا دائما ضربه میخورند جای مناسبی برای بروز سرطان می میشن. گاهی یک قسمت از دست یا پا به یک جا خورد و زخم کوچکی پیدا میکند این زخم یه مدت خوب نمیشه و تبدیل به سرطان میشه من خودم در بعضی از جاهای بدنم قده های کوچکی داشتم زیر پوست بیزهام ای به بزرگی یک نخود پنهان شده بود که بعد از خامخاری روز به روز کوچکتر شد تا یک روز زیر پوست بیزن قده به بزرگی یک نخط پنهان شده بود که بعد از خامخاری روز به روز کوچکتر شد تا یک روز پوست را سوراخ کرد. وقتی فشار دادم یک تکه گوشت مرده سیاه بیرون آمد. روی انگوشتان من دو تا زخم کوچک وجود داشت که سالها خوب نمیشد. معلوم بود که اینها گوشت بیگانه هستند که برای خود ماندند و به گوشت بدن نمیخواستند بچسبند و جوش بخورند. با چشم خود مشاهده کردم که چطور این گوشت بیگانه کم کم گوشت بدن مرا میخورد و جلو می رود و بزرگتر می شود. بعد از خامخاری چند سال بی حرکت ماند، جوش خورد و ناپدید گردید. کادرری از بایگانی یا دادگاه های آمریکایی مدارکی به دست آورد که نشان میداد کارگرانی که در کارخانه موقع کار یک زخم کوچک روی دست یا پا یا قسمت دیگر را از بدن بر می داشتند این زخم یک مدت خوب نمیشد و به سرطان تبدیل می که گسترش پیدا می کرد و باعث مرگ و کارگر می شود. دادگاه کوتاه این زخم ناچیز را باعث مرگ دانسته و صاحب کارخانه را به پرداخت خون محکوم می کرد. می دادرسی و مشابه در پرونده این دادگاه ها وجود دارد. بیمارستان یعنی کارخانه بیماری سازی، علم پزشکی که شهرتش همه جای دنیا را فرا گرفته، همه مردم نسبت به آن احترام قائلند و امید همه بیماران است. عوض اینکه بیماران را معالجه کند، خودش بیماری می سازد و پخش می کند. به طور ثابت شده که مصرف غذای پخته باعث همه بیماری ها و سایر بدبختی های انسانی است. پزشکان در بیمارستان ها به بیماران صبحانه نهار و شام فقط غذای پخته می خورانند. عجیب این است که پزشکان و زیدشناسان در مطالعات علمی، هیچ وقت بین غذای خام و پخته فرقی نمیگذارند آنها سالهای سال مطالعه کردند و نتیجه گرفتند که یک انسان روزانه فلان قد پروتئین فلان قد مواد نشاسته یا فلان قد چربی لازم دارد ولی این پروتئین چربی یا نشاسته پخته است یا خام مرده است یا زنده برای آنها فرقی ندارد حتی آنها در بیشتر موارد مواد پخته را ترجیح میدادند این چه علم است که هنوز نتوانسته است بفهمد پخت و پز عملی از غیر طبیعی و موزیر تمام اختیارات را به آشپز, به آشپز می دهند. تمام اختیارات را به آشپز میدن که که هرش بخواهد بخرد قاطی کند روی آتش بگذارد بپزد بجوشاند بسوزاند و به اتاق بیماران بفرستد مهمترین مسئله که تغذیه است تمام اختیارش به دست آشپز نادان داده شده است پزشکان هنوز نمی دانند. بدن انسان به غذای خام احتیاج دارد که بدون غذای طبیعی هیچ انسانی نمی تواند زنده بماند ولی آقا یا خانم پزشک خیلی راحت مصرف آن را قدغن می کند و با گرسنگی مردم را قتل آم می کند جگر, جگر من از این گونه نادانی پزشکان داغ دیده است وقتی آنها ار مفید و شفابخش را با داروهای سمی قطع می کند چقدر به خود می بالند، که بیماری را معالجه و درد را ساکت کردند قلب از گرسنگی کار نمی کند کلیه از گرسنگی از کار افتاده و پزشک از گرسنگی ارگان های بدن چیزی نمی داند مقدار معین شده ویتامین، پروتئین، چربی و مواد نشاسته ای پخته سوخته و مرده را غذای کامل برای انسان می دانند ارگان های همه پختخار هم گرسنه و هم مسموم شده است این ارگان‌های گرسنه با یک چهارم یا یک پنجم ظرفیت خود کار می‌کنند. وقتی این یک پنجم هم تمام می‌شود، پزشک عوض اینکه به آنها غذای طبیعی بدهد و آنها را به کار اندازد، تسمی می‌گیرد این ارگان‌ها را پیوند بزند و تجربیات خود را کامل تر کند. او پیوند می‌زند و بیچاره بیمار سادلوه را راحت می‌کشد. آیا برنارد باز هم برای به دست آوردن تجربیات خود مردم را مثل موجودات آزمایشگاهی می کشد. آیا وجدان این آدمکش هیچ ناراحت نیست در مجالس، در بیمارستان و در مطب رول دانشمند بازی می کند. دانشمندی که عوض اینکه به ارگان، به ارگان گرسنه غذای طبیعی بدهد تا کار کند آن را میبرد و مانند یک آشغال در آشخالانی می اندازد و یک ارگان مصنوعی جای آن میگذارد. آنها در ارگانهای گرسنه و مسموم شده آنها ارگانهای گرسنه و مسموم شده را که میتوانستند با غذای خام گیاهی به کار بیاندازند میبورند و دور میاندازند داروندار بیمار را از دستش میگیرند و او را راحت میکنند میکشند و برای این کار کثیف چه اسمی باید بگذاریم اگر این جنایت نیست پس چیست اگر آدم کشی نیست پس چیست اگر کلا برداری نیست پس چیست کسی, وجدا... کسی وجود ندارد که این جنایتکاران را به محاکمه بکشد آنها خودشان برای خود داوری می کنند کسی حق ندارد برای جنایتی که مرتکب می شوند آنها را مجازات کنند آنها می و حاضر و آماده منتظر یک قربانی دیگر هستند اکنون دیگر به اصطلاح علم پزشکی شهرت سابق را ندارد پختخاران نیز از ناتوانی آن به سطوح آمدند چون مقادیر هنگفتی پول خرج می کنند و نه فقط هیچ نتیجه نمیگیرند، بلکه روز به روز بدتر نیز می شوند چون پزشکان نه فقط پوخته را من نمی کنند بلکه صدها نوسم دیگر به نام دارو و یا ویتامین مصنوعی به آن اضافه می کنند مردم تمام عمر کار می کنند، زحمت می کشند. دروغ میگویند و دزدی میکنند تا پول جمع کنند و در موقع بیماری این پول ها را به دکتر تحویل بدهند و از این دنیا تشریف ببرند. یک آقایی با دکتر قرار میگذارد که چه هزار تومان پول برای یک عمل جراحی همسرش بفردازد. این آقای محترم 20 هزار تومن نقد میده و برای باقی 20 هزار تومن چک وعدهدار می نویسه. کار به عمل جراحی نمیرسه. دکتر با اولین آمپول خواب‌آور زن را می‌کشد این پزشک بی‌رحم و چپاولگر نه فقط هزار 20000 تومان پس نمیده، بلکه برای چک هم اجرا صادر می‌کنه و آن را وصول هم می‌کنه حالا ببینیم دارو چیه است نیاکانمو قبل نیاکان ما قبل از کشف آتش در جنگل‌ها و غارها زندگی می‌کردند با میوه‌ها و ریشه‌های جنگلی تغذیه می‌کردند و از چنان سلامتی برخوردار بودند که با دست خالی با جانوران وحشی گلاویز می‌شدند بعد از اینکه آتش به اصلاح کشف گردید و مردم به غذای پخته عادت کردند این عادت که به زودی به اعتیاد تبدیل شد این عادت که به زودی به اعتیاد تبدیل شد چنان گسترش پیدا کرد که مردم تا چشم باز کردند این عادت را دیدند و خیال کردند که از اولین طور بوده و همین طورم هم باید باشد هیچ کس در عادت پختخاری چیزی غیر طبیعی و مضر مشاهده نکرد میلیون پزشک، دانشمند و زیستشناس رفتند و هیچ کدام از آنها جسارت نکرد عمل پختخپز را محکوم و آن را باعث بیماری ها اعلام کند به خصوص که بیشتر مردم غذای به اسطلاح لذیذ خوردن را هدف زندگی خود می دانند. دانشمندانی ظاهر شدند مانند پاستور، کخ و غیره که میکروب را کشف کردند. آنها مشاهده کردند که یک عده از مردم بیمار می شوند ولی دیگران که مقاومت بدن آنها بیشتر است اصلا بیمار نمی شوند. آنها عوض اینکه علت ضعیف شدن بدن را جستجو کنند و علتش را در پخت و پز ببینند و مصرف آن را محکوم کنند به کار داروسازی پرداختند که خیلی زود پیشرفت کرد و به حال کنونی رسید بعدا مردم دیدند که آتش تمام مواد حیاتی را در غذای طبیعی نابود می کند و باز هم عوض اینکه مصرف سم و آتش را قداغن کنند شروع به ساختن ویتامین های مصنوعی کردند وظیفه سم فقط مسموم کردن است و معلوم است سم در هیچ شرایطی قادر نیست کار مفید انجام دهد مهمترین کاری که دارو انجام می دهد قط کردن اکسالمل یا شفابخش بدن است که پزشکان بیماری تصور می کنند کم کم پزشکان متوجه میشوند که داروها به غیر از مسموم کردن هیچ کار دیگری نمیتوانند انجام دهند لذا بعضی از پزشکان سعی میکنند کمتر دارو تجویز کنند ولی معمولا به اصطلاح مجبورند که نسخه بنویسند چون اگه ننویسند نمیتونن پول بگیرند پزشکانی که عقل دارند انسان واقعی هستند و رحم دارند باید روی تابلوی خود بنویسند که بروید خامخاری کنید دیگر بیمار نیستید در به مطب را ببندند و بروند کار دیگری پیدا کنند آنها باید علنا اعلام کنند که ما دیگر نمیخواهیم با غذای مرده با پروتئین حیوانی و داروهای سمی باعث مرگ مردم شویم ما تا به حال اشتباه میکردیم و فعالیت ما غلط بوده اکنون حقیقت را شناختیم مصرف غذای پخته را محکوم میکنیم مصرف داروها را محکوم میکنیم و آرزو داریم که با این راه ساده و طبیعی همه به سلامتی کامل برسند آنها در این دنیا یک نفر، آیا در این دنیا یک نفر انسان حقیقی؟ پیدا می‌شود که از خودگذشتگی کند و به خاطر مردم ستم دیده این دنیا حقیقت را تصدیق کند و به داد آنها برسد این کار خیلی ساده است هر کسی می‌تواند بفهمد که پخت و از عملی غیر طبیعی و مضر است که قانون طبیعت را می‌شکند غذای زنده را می‌کشد کلیه مواد حیاتی را محو و نابود می‌کند و باعث بیماری‌ها می‌شود راستی این پزشکان چه جور آدمایی هستند که این حقیقت آشکار را نمی‌بینند اکنون دیگر نمیتوانن بگویند که خامخاری چیز خبر نداریم اکنون همه جا صحبت از خامخاریه اعلامیه های ما همه جا پخش شده و بر روی دیوارها نوشته شده است جواب ایشان چیست؟ میترسند بیماران را با غذای طبیعی تغذیه کنند؟ بله میترسند و البته از سلامتی بیماران نمیترسند بلکه از خالی ماندن جیبشان میترسند چه شغل خوب، آسان و بی زحمدی دارند؟ مقادیر هنگفتی پول میگیرند برای اینکه اسم دوسه سم را رو روی کاغذ بنویسند در بیمارستان ها بیماران را اول لخت میکنند و بعد میکشند خاننده عزیز مقصود من اغراق گفتن و توهین کردن نیست من فقط حقیقت رو میگم حقیقت هر قدرم تلخ باشه باید گفته شه این آنتی بیوتیک ها سرم ها کورتیزون ها و مانند اینها تا به حال کسی را سلامتی نبخشیده اکسیژن چطور وقتی بیمار را به اکسیژن میبندند بدانید که دو سه روز دیگه بیشتر این بیمار زنده نیست وقتی از اونا میپرسیم شما که میدونید این کار نتیجه نداره چرا انجام میدهید؟ جواب میدهند وظیفه ما این است که دو سه هم که شده بیمار را بیشتر زنده نگه داریم و برای من معلوم نیست آیا اکسیژن زندگی بیمار را طولانی تر یا کوتاه‌تر می‌کند. میکند خوب توجه کنید اگر آشپزخانه خانه بیمارستان ها را خاموش کنید، هیچ بیماری در بیمارستان نمی میرد و همه بیماران کاملا سالم به خانه های خود بر حرفهای من خیالاتی نیست. من با هزاران مورد ثابت کردم. کسی که خامخار میشود دیگر یک دینار به پزشک, پول و, دا... به پزشک و دارو پول نمیدهد. چون دیگر بیمار نیست. این نهزت دنیا را از جهنم بهشت به بهشت تبدیل میکند، پزشکانی که این حرفها را می مانده و برای اصلاح روش خود هیچ اقدامی نمی کنند، آنها واقعا جنایتکار هستند، آدم کش هستند و یا کاملا احمق هستند. فرمول های علمی یاد گرفتن و حفظ کردن علامت عاقل بودن نیست. در بیمارستان همیشه بیمارانی هستند با ارگان گرسنه و فرسوده که تمام بدنشان پر سمه. وضعیت اونا به جایی رسیده که دو سینی غذای سمی و چند نو داروی سمی کافیه که این بیماران بمیرند. پزشک این کار را میکنه و بیمار رو میکشه. آیا این پزشک گناکار نیست؟ آیا او آدمکش نیست؟ من نباید این حرفا رو به زبان بیارم؟ در صورتی که اگه پزشک عوض این دو سینی خوراک سمی و چند نو داروی سمی این بیماران را با میوه و سبزی زنده تغذیه میکرد، آنها زنده میماندند. بیشتر پزشکان بعد از خواندن کتاب خامخاری و شنیدن گزارش های حقیقت حقیقت قبول می کنند و میتونند راجع به اصلاح تغذیه بیمارستان ها به مقامات صلاحیت دار برنامه پیشنهاد کنند. ولی این کار را نمی کنند چون می همکارانشان آنها را سنگباران باران کنند. هر یک از آنها اینطور فکر می کنند. من چرا باید این کارو کنم بذار بقیه انجام بدن؟ من از این کار پول گیر میارم و معاش خودم و تمین میکنم؟ همه این طور فکر می و کشتار مثل سابق ادامه پیدا می کند به طوری که خواننده گرامی مشاهده کرد قده سرطانی دائما با پروتین سر و کار داره پروتین می پروتئین پروتین می سازه، شکار می کنه و خلاصه همیشه دنبال پروتئین می گرده اگه سنتز در جایی که خودش مستقر است پروتئین کافی پیدا نکند؟ دست هایش را به طرف سر تا سر بدن صاحبش دراز میکنه و وقتی همه های موجود در بدن را میبلعه و تمام میکنه شروع به بلعیدن های بدن صاحبش میکنه تا بالاخره هم او را میکشه و هم خودش نابود میشه همه این کار همه اینها کار همین پروتئینه که پزشکان خدای خود کرده اند و میپرستند همین پروتین که ده ها کیلو گوشت زائد که بعدا مردم میخوان از این گوشتهای لعنتی خلاص شن و نمیتونن پزشکان برای عمل کردن و بریدن این گوشتها برای هر کیلو 25 هزار ریال مطالبه میکنند با این حساب آن افسر بازنشسته در بخش نامه های کتاب خامخاری که با خامخاری 90 کیلو از وزنشو کم کرد مجبور بود دو میلیون و هزار ریال پول خرج کنه ولی با خامخاری بدون یک دینار خرج به مقصود خود رسید به علاوه پولهایی را که برای غذا رساندن به این گوشت‌های زائد خرج میکد را دیگر خرج نمی کند. تازه بعد از عمل کردن با خوردن, با خوردن چند دفعه چلو کباب، سبزی غرمه و آبگوشت جای این گوشتهای عمل کرده و دو مرتبه پر میکرد ولی اکنون با غذای طبیعی حتی یک گرم گوشت زائد تولید نمیشه گرسنگی بیماری یعنی گرسنگی ارگان ها و مسموم شدن آنها این حقیقت بزرگترین کشف قرن بیستم است به قدری بزرگ و مهم که لازم است ها دفعه در سراسر دنیا تکرار شود تا در مغز همه پختخارها پختخارها محکم جا بگیرد پختخاران خوراکای پخته را که ابدا ارزش غذایی ندارند غذا مینامند. ولی به میوه‌جات که غذای اصلی انسان است چندان اهمیت نمیدهند و آنها را چیز لوکس و غیر ضروری حساب میکنند وقتی یک پخت خار که هنوز کتاب خامخاری رو نخونده میشنوه که خامخاران چیز پخته نمیخورند تعجب میکنه و میگه مگه میشه بدون نان زندگی کرد مگه میشه تنها با میوه شکم سیر کرد واقعا کسی که اولین دفعه خامخاری رو شروع میکنه، هر چه میوه و سبزی میخوره احساس سیری نمیکنه. دلیلش چیه؟ آیا میوه و سبزی ارزش غذای کافی نداره؟ بعضیا اینطور فکر می کنن، ولی همینطور که پختخورران همه جا سیاه را سفید و سفید را سیاه میبیند، اینجا نیز سخت اشتباه می کنند. آنها دهها سال خوراک های پخت خورده و شکمشان را با آن پر کردند به خیال اینکه به بدن غذا میدهند. ولی بدن چون به این خوراک های و غیر طبیعی احتیاج ندارد گرس نمی‌ماند. قلب، کلیه، کبد، ریه و ارگان دیگر بدن برای فعالیت طبیعی خود فقط و فقط به غذای زنده گیاهی احتیاج دارند جهاز هازمه انسان مواد پخته و به زور قبول می‌کند. روزها و گاهی هفته زحمت میکشه تا آنها را از بدن دور کنه در این مدت پخت خار پرخور از خود راضیه از خوردن خوراکای پخته لذت میبره خود را کاملا سیر تصور میکنه چون مطابق توصیه پزشکان به مقدار کافی پروتئین چربی مواد نشاسته‌ای و کالری وارد بدن کرده و هیچ وقت به فکرش نمیرسه نمیریسه که ارگانای او از گرسنگی حقیقی مینالند و دارن آخرین نفسای خودشونو میکشن و احتمال داره همین فردا کار با آخر برسه در این شرایط وقتی شخص با حقیقت آشنا میشه مصرف مواد پخته و قطع میکنه و با غذای طبیعی تغذیه میکنه هر چه میوه و سبزی میخوره احساس سیری نمیکنه چرا چون ارگانهای او که دهها سال گرسنگی کشیده بودند از غذایی که سخت احتیاج داشتن محروم مانده بودند و همیشه حسرت آن را میکشیدند اما اکنون به فراوانی گیرشان آمده که هرچه میل دارند بخورند جهاز از زمانی کاملا کاملاً آمادگی تا آنها را هضم کنه. در این شرایط، شخص 4-5 برابر آنچه احتیاج روزانه یه انسان کامل باید باشه قزاز مصرف میکنه تا این ارگانه گرسنه و سیر کنه. آنها را با سلولهای سالم مواجه کنه و به حالت طبیعی خودش برگردونه. هیچ کس از پخت خوران، تصورش را هم نمیتواند بکند که مواد گیاهی در حالت زنده چقدر غذای پر است و چه مقدار کمی از آن قادر از احتیاجات روزانه بدن یک انسان را تامین کند فقط خامخاری که چندین سال تجربه پشت سر و کودکی که هنوز تم مواد پخته و نچشیده میتونه به این حقیقت پی ببره اینجا لازم کمی بیشتر شرح بدیم. همانطور که گفتیم مواد پخته اصلا ارزش غذایی ندارند ارگان ها برای فعالیت خود از آن استفاده نمی کنند تمام پختنی های دنیا نمیتونن حتی یک سلول بسازند که قادر بشه کار کلیه او انجام بده و ادرار را تصفیه کنه. این نوع سلول ها فقط از غذای زندگی به وجود میان. وقتی یه قلابی بهانه میاره که به غذای طبیعی دسترسی پیدا نکردم مجبور شدم یه چلو کباب بخورم این چلو کباب نه فقط بدن و سیر نکرده بلکه گرس کرده چون اگه قبلا یه سیب خورده بود اکنون صفبان را میز نفله کرده است. زیرا این سیب مجبور می شود یه قسمت از انرژی خود را صرف کند تا ضرر چلو کباب را از بدن دور سازد پس نتیجه می گیریم غذایی که ارگان های فخت را تغذیه می کنند نصف غذای زندگی است است که گاهی بدون توجه زیاد مصرف می کنند. معلوم است که این مقدار کم غذای طبیعی نمی تواند احتیاجات ارگان ها را تأمین کند این غیر،, این غیر کافی بودن غذای طبیعی ویس میشه که قلب کلیه و سایر و ارگان ها تدریجا به سوی ازمهلال برند بروند و از کار بی افتند هیچ کس در علم پزشکی خبر ندارد که این ارگان های بیچاره گرسنه هستند آنها به مواد مرده پروتئینی چربی و نشاسته احتیاج ندارند این مواد مورد اواظ اینکه به ارگان ها غذا بدهند آنها را مسموم می کنند. این مواد مورد عوض اینکه به ارگان ها بدهند آنها را مسموم می کنند. بعد از, سطح... بعد از سطحان و معاینات و آزمایشات پزشکان تشخیص می دهند که این ارگان خراب شده یا دارد خراب می شود. ولی چرا خراب می شود؟ آیا برای خراب شدن, آیا برای خراب شدن یک دلیل هم وجود دارد یا نه؟ آنها با این چیزها کاری ندارند. این بیچاره ها هیچ وقت نمیتوانند بفهمند که این ارگان ها گرس هستند و فقط غذای طبیعی میخواهند که فورا شروع به کار کنند. قضایی که حتی از آن در بیمارستان ها پیدا نمیشه میشه. کهی آنها باید بفهمند که خودشان در آشپزخانه های بیمارستان ها بیماری میپزند و به تمام دنیا پخش میکنند؟ البته کالری زائد مواد پخته یک انرژی زائد نیست تولید میکنه. انرژی بدون ترمیم که روی ارگان گرسنه و ضعیف یک بار خسته کننده نیز اضافه می کند. وقتی طبیعت می خواهد برای انسان غذا تهیه کند، کلیه عناصر ترکیب دهنده یعنی مواد اولیه غذا را به مقادیر حساب شده مطابق احتیاجات بدن ما در گیاهان جمع می کند. آتش کلیه حسابای طبیعت را به هم می زند، بعضی اناسور عالی و حیاتی را که پزشکان چند نو را شناختند و ویتامین نام و هزارها نو را که هنوز نتوانستند بشناسند میکشد و نابود می ولی عناصر ساده و بیارزش مانند پروتئین، مواد چربی، مواد نشاسته‌ای، کالری و غیره را که مساله ساده ساختمانی مواد سوختنی و انرژی کازه بوده را در غذا ایجاد می کند. کالری زائد حرارت زائد تولید نموده و به ازولات انرژی زائد می‌رساند و آنها را به حرکت در می‌آورد. این انرژی زائد، این فعالیت ازولانی زائد و این حرارت غیر ضروری روی ارگانهای گرسنه مسموم شده و فرسوده روی ارگانهای گرسنه مسموم شده و فرسوده دائما فشار می‌آورند و آنها را خیلی زودتر از کار می‌اندازند. کارگرهای ساختمانی زودتر پیر شده و بیشتر مریض می‌شوند. قلب وزنهبرداران و ورزشکاران ورزش‌های سنگین زودتر مریض شود در کتاب خامخاری چاپ چهارم عکس یک افسر بازنشسته را داریم با 160 کیلو وزن که مدتی نیز وزنهبرداری کار می‌کرده. بدن او زیر فشار این سنگینی کاملا آجز و ناتوان شده بود. این آقا با خامخاری 90 کیلو از وزنش رو کم میکنه و الان با وزن 70 کیلو با بچه های خود همگی خامخار و کاملا سالم و خوشبخت زندگی میکنند. اگه در نظر بگیریم که این آقا اقلن 30 کیلو سلولا, زائدو با سلولا زائد رانیز با سلولا اصلی مبادله کرده معلوم میشه که یک انسان 40 کیلوی 120 کیلو گوشت زاید رو به دوش گرفته. آنها را تغذیه می کرده البته با غذای خودش یعنی غذای مرده و با خود حمل می کرده است این کار همین پروتئین و همین اسید آمینه است که پزشکان گمراه به بزرگ و کوچک توصیه می کنند این آقای سرشست کیلویی با ارگان های گرسن و فرسوده بیشتر وقت خود را در بیمارستان ها و از همه نو ناراحتی رنج می برد خود توجه کنید یک شخص سرشست کیلویی ارگان های گرسن و لاغر کدام پزشک باور می کند؟ قتل عام علم پزشکی گوته گفته است که حقیقت همیشه باید تکرار شود پزشکان ظاهر شدند که گویا مردم را از بیماری ها نجات دهند ولی با غذاهای پخته و داروهای سمی خودشان بیماری میسازند و پخش میکنند بیمارستان ها با آشپزخانه ها و داروهای خود کارخانه های بیماری سازی هستند که مردم را نه فقط هزار هزار بلکه میلیون میلیون قتلام می کنند این حرف افترانی است. اگر من نتوانم حرف هایم را ثابت کنم هیچ وقت به خودم این اجازه را نمیدهم که نمیدهم به مردم تهمت بزنم در طبیعت بیماری وجود ندارد مردم توسط غذای پخته و داروهای سمی دو عامل اصلی بیماری ها خودشان بیماری می سازند علم پزشکی علمی از غلط متضاد و موزر پزشکان آزمایشگاه طبیعت را نمی بینند. به طبیعت نگاه نمی کنند. آنها به آزمایشگاه های خود وارد شدند و یک, دنای... ی... یک دنیای مصنوعی برای خود و مردم می سازند. در این آزمایشگاه ها همه چیز را غلط می‌بینند، غلط تشخیص می دهند و غلط نتیجه میگیرند. آنها بین مواد خام و پخت فرقی نمیگذارند. سفید را سیاه و سیاه را سفید می‌بینند، مفید را موزر و موزر را مفید تشخیص می پروتئین حیوانی پخته و گندیده را مفید قرار می‌دهند و میوه و سبزی خام را که از طرف طبیعت یگان غذای انسان تعین شده است قدغن می کنند. فقط با این دستور ابلهانه آنها میلیون ها افراد بشر را به کشتن می دهند. وقتی این قبیل اشخاص به باشگاه ما می‌آیند، به باشکاه ما میایند. می آیند من میگویم هر هرچه پزشک قدغن کرده است از امروز فقط آن را بخورید میخورند. چند روز اکسولمل شفابخش را که پزشک بیخبر آن را بیماری تصور کرده بود تحمل می کنند و معالجه می شوند پزشکان به مردم بیمار و ناتوان دستور می دهند کباب و باز هم کباب بخورند کبابی که از جسد مرده یک حیوان می گیرند و با پیاز می تا نرم شود و زیر دندان حل شود این نرم, شدن به چه... این نرم شدن چه معنی دارد یعنی بگندد بپوسد و تمام به سم تبدیل شود با همین کباب من دو بچه هم را با دست خود کشتم پروتئین حیوانی با های خود پزشکان را دیوانه کرده است اصلا چطور این آقایان ثابت کردند که این نو پروتئین و اسیدامینه برای بدن انسان لازم و مفید است آنها این کار را در عمل ثابت نکردند و هیچ وقتم نمیتوانند ثابت کنند بلکه برعکس آن را میتوانند ثابت کنند که ما کردیم آنها چون به کباب و بیفتک معتاد شده اند زیر فشار این اعتیاد خیال میکنند که اسیدامینه های حیوانی برای انسان لازم است من خودم 53 و سه سال با این پروتئین به آسنانه مرگ رسیدم وقتی مصرف آن را قطع کردم دوباره متولد شدم دخترم آناهید 22 سال است که به این پروتئین لب نزده است مگر چه شد؟ فقط از سالم ترین افراد این دنیا شده است ما آن ماده ای را غذا حساب می کنیم که بتواند به تنهایی احتیاجات بدن یک موجود زنده را تامین کند همه گیاهان خام این خاصیت را دارند ولی گوشت به تنهایی در 28 روز انسان را مسموم می کند و میکشد همین خاصیت را شیر و تخم مرغ و اصل هم دارند این حقیقت را گاو بهتر از دانشمند میداند بعد از اینکه چند ماه به بچه خود شیر میدهد، وقتی علف بلند می شود، گاو بچه خود را از خود دور می کند و شیر را قطع می کند. انسان عقل این شیر را به زور از گاو می گیرد، آن را می‌پزد و خشک می کند، از آن پنیر، کره و ماست درست می کند. اینها چیزهای غیرطبیعی هستند که انسان خودش میسازد ولی پزشکان در آزمایشگاه در آنها چیزهایی مانند پروتئین، کلسیوم و غیره میبینند که خیال میکنند شیر یا پنیر یا اصل یا تخم مرغ غذاهای مفید هستند. چه نادانی وحشتناکی. آنها شیر را غذای کامل و مفید اعلام میکنند. طبیعت تخم مرغ را برای انسان نساخته است. تخم مرغ برای این است که یک جوجه از آن بیرون بیاید. اکنون مرغها را به قدری خراب کردند که دیگر از تخم‌هایشان جوجه در نمیآید. غذای زنده، غذای زنده طبیعی وقتی پخته شد دیگر از دیگر ارزش غذایی به کلی ندارد و در بدن اختلالات گوناگون به وجود می‌آورد. می‌دانیم که غذای پخته سلول‌های زائد میسازه، سموم مختلف تولید نموده و در بدن ذخیره میکنه. از طرف دیگر ارگان‌ها گرسن مانند خلاصه بیماری یعنی گرسنگی ارگانها و مسموم شدن آنها. پزشکان برای معالجه این بیماری صدها نوع سموم مختلف جمعوری کرده و به اسم دارو، قرص، شربت، آمپول و واکسن دنیا را پر کردند آیا کدام یک از این داروها قادر است ارگانهای گرسنه را سیر کند؟ سلولای زائد را بکشد و سمون مختلف را از بدن خالی کند هیچ وقت چنین داروی وجود ندارد و نخواهد داشت فرض کنیم فرض محال دارویی پیدا شد که توانه سم را دفع کند، سلوله زاید را بکشد و ارگانها را سیر کند. این کار چه فایده ای دارد؟ وقتی عامل بیماری یعنی غذای پخته هر روز وارد بدن می شود. پس برای معالجه این بیماری فقط جریان عامل باید قطع شود. راه دیگری وجود ندارد. چه فایده اگه آب استخر را پاک کنیم؟ وقتی آب آلوده دائما به طرف استخ جاریه ما باید سعی کنیم که آب آلوده وارد استخر نشه. من فعالیت غلط پزشکان را محکوم می کنم و باعث همه بیماری ها و, مرگ و میرهای های زودرس اعلام می کنم. این حقیقت است. آنها نمی دانند چه کار می کنند. آشپزخانه منزل ایشان مجهزتر و کاملتر از سایرین است. این است که آنها مریضتر از بیماران خود هستند و زودتر از آنها دوچار سکته می شوند. آنها به هر چه در دانشگاه یاد گرفته اند کورکورانه عمل می‌کنند و خیال می‌کنند که به مردم کمک می‌کنند. اکنون 15 سال است که من با ها و بروشورها به زبان‌های مختلف با آنها گوش می می‌کنم. اکنون آنها از جریان آگاهی دارند و بازم در بیمارستان‌ها غذای پخته و داروهای سمی حکمفرما است. اکنون, آن... اکنون آنها مردم را ندانسته نمی‌کشند، بلکه می‌دانند چه کار می‌کنند. آنها کسب شرم‌آور خود را زیر پوشش علم ادامه می‌دهند. من گفتم و باز هم میکنم. اگر این پزشکان آشپزخانه های بیمارستان ها را خاموش کنند و عوض یک بشقاب غذای پخته یک بشقاب سالات های خام به بیماران بدهند دیگر هیچ کس در نتیجه بیماری نمی میرد. چرا آنها این کار کاملا ساده آسان و طبیعی را نمی انجام بدهند شاید بهانه بگیرند که بیماران حاضر نیستند از غذاهای پخته دست بکشند. این درست نیست. اگر پزشکان دستور بدهند این غذا را باید بخورید این راه نجات شماست هیچ کس نمیتواند مخالفت کند. همینطور که مخالفت نمی کنند وقتی میگویند شکمتان را باید باز کنیم. احتمال دارد که پزشکان حقیقت را شناختند ولی می اگه به بیماران بگن علاج شما در خامخاری از دیگر پخته نخورید در نتیجه این دستور دو دکلمعی در به همه بیمارستان ها داروخانه ها و متب ها تخته شوند. علم پزشکی و داروسازی به یک تجارت وحشتناک درآمده است. کارخانه‌ها و شرکتهاهای داروسازی با جان مردم بیگناه بازی می‌کنند. میلیونها افراد بشر را با داروهای کشنده مسموم می‌کنند، می‌کشند و میلیاردها پول گیر می‌آورند. پزشکان عوض اینکه به بیماران بگویند، ارگان شما گرس و مسموم شده، برید غذای طبیعی، بخورید تا کار کنه عوض اینکه این دستور رایگان بدن و بیمار رو نجات بدند، برای یک یا دو ساعت عمل در حدود یک سال کار یک کارگر پول میگیرند و بیمار را میکشند این کسب کثیف و شرماوز زیر عنوان علم انجام میگیرد مردم برای کلمه علم احترام زیادی قائلند به نظر من علم پزشکی ترین علم دنیا است که باعث مرگ میلیون ها افراد بشر میشود در دنیا همه جور علم وجود دارد دز نیز با علم خاصی دزدی می که گیر نیفتد جنگ را نیز با علم جلو می برند که هرچه بیشتر انسان کشته شود قصاب هم با علم سر حیوان را میبرد و تکه تکه می کند. پزشکان پخت و پز را چیز غیر طبیعی و مزهر نمیدانند. آنها خیال می که این عادت عادی و معمولی است که همیشه بوده و باید همیشه باشد به نظر آنها از جای دیگر به نظر آنها از جای دیگری باید چاره بیماری ها را کرد ولی این کار غیر ممکن است در این راه آنها صدها سال زحمت کشیده اند ولی چه نتیجه ای گرفته اند اینکه انسان از همه موجودات دیگر بیشتر بیماری دارد پزشکان به علم خود خیلی افتخار می کنند به آن میبالند و همه دستورات و نتیجه گیری های آن را صحیح و بینقص تلقی می کنند ولی یک دقیقه فکر نمی کنند که اگر این فرمول ها و دستورات صحیح بود پس این بیماری ها چیست مگر اینها را باد آورده است اگر علم پزشکی راست می گفت این همه بیماری ها مال حیوان های جنگلی بود و انسان محفوظ از آنها بود چون آنها علم پزشکی ندارند ولی ما داریم پس چرا برعکس شده است پزشکان روشن فکر و انسان دوست بیدار شوید به خود بیایید و حقیقت را بپذیرید آشپزخانه‌های بیمارستان‌ها را خاموش کنید و مانع مرگ بیموقع مردم شوید این کار کوچکی نیست که ما شروع کرده ایم باور کنید همه این بیماران که سعب و العلاج حساب می‌کنید با این راه خیلی ساده معالجه می‌شوند فقط مصرف غذای پخته را قطع کنید و همه بیماران را سالمشاداب از بیمارستان مرخص کنید کافی است یک بشقاب غذای پخته را با یک بشقاب غذای خام و چند و میوه عوض کنید تا عوض اینکه جسد بیماران را از بیمارستان به گورستان بپرسید آنها را کاملا سالم به خانه‌هایشان برگردانید. خامخاری بزرگترین انقلابی است که در طول تاریخ بشر به وقوع پیوسته است و بالاتر از همه انقلاب ها قرار دارد. یک انقلابی که همه بیماری ها را که بزرگترین بدبختی انسان ها است از این دنیا بر می چیند و علم پزشکی را که با پختخواری و داروخاری تمام دنیا را فرا گرفته است باطل می کند. من از همه اشخاص انسان دوست و خیر دعوت می کنم که، که کمک جمعیت خامخارام بشه تابند. پزشکانی بی اندازه هستند آنها خیال می کنند که ما باید خامخاری را علمی ثابت کنیم من علم پزشکی را محکوم و باعث بیماری ها اعلام می کنم ما چطور میتوانیم با فرمول های غلط علمی حقیقتی که چون روز روشن و آشکار است را ثابت کنیم مگر قانون طبیعت احتیاج به ثابت کردن دارد هدف علم پزشکی چیست مگر این نیست که مردم را به سلامتی کامل برگرداند به سلامتی کامل برساند آنها که نتوانستند به این حدف برسند میخواهند که ما حرفهای خود را ثابت کنیم. خیلی خوب هرکس که خامخار میشود دیگر بیمار نیست و به پزشک و دارو احتیاج ندارد. آیا بالاتر از این مدرکی وجود دارد؟ هرکس شک دارد بگذار خودش امتحان کند. در این دنیا از نوزاد گرفته تا پیر مرتم بیمارند. کافی است فقط یک یا دو ما خامخاری مطلق بکنند تا نتیجه را خودشان ببینند. هیچ کس نمی تواند این حقیقت را انکار کند. من با کتاب های پارسی، انگلیسی، آلمانی و هندی هزاران نفر را در کشور و میلیون ها نفر را در خارج از بیماری ها نجات دادم. سالها بعد وقتی همه به هوش آمدند پخت و پز را رسما محکوم کردند و مثل مواد مخدر مصرف آن را قدغن کردند آن زمان خوشبختی که اثر هیچ نوع بیماری وجود نخواهد داشت و کلمه بیماری را فقط در کتاب‌های تاریخی خواهند یافت مردم آن زمان خواهند گفت اجداد ما چقدر نادان و بی‌عقل بودند که غذای طبیعی و زنده را با آتش می‌کشتند و برای خود بیماری می‌ساختند در این باره دکتر هجازی قشنگ تر می نویسد. او نقل می کند که یک فضانورد مریخی که از زمین برگشته کنفرانس می دهد که در زمین چه خبر است؟ این فضانورد می گفت که آخرین تحقیقات به این نتیجه رسیده است که در کره زمین حیات وجود دارد و در آنجا موجوداتی هستند که در و شعور دارند اما شما تصوری از انسان ندارید و بنده برایتان تان توضیح می دهم. این مشک یا خیک؟ است که 4 تا ده این مشک یا خیک است که 4 تا دست دارد. این خیک یا مشک با این دست هایش روی زمین حرکت می کند تلاش می کند و پیوسته تکسیر هم می شود مشاهده شده که همیشه به جان هم میپند. همدیگر را آتش میزنند پوست میکنند و تمام این کارها برای این است که بیشتر بخورند و پیوسته این، مشک را پر کنند. اما کار عجیبی که ما هنوز نفهمیدیم چیست این است که غذاهای سالم و میوه های شاداب و گل های بسیار لطیف و همه عدویه طبیعی را که طبیعت در اختیارشان گذاشته و این همه تلاش آدم کشی و جنایت برای به دست آوردن آنها می کنند بلکه آنها را به خانه می پوس پوست می سر و تای آن را میزنند. آن را توی آب میریزند و همه را با هم مخلوط میکنند. بعد آنها را نمک میزنند. فلفل روغن میزنند. بعد موادی به آن اضافه میکنند. میجوشونند. میسوزونند. بعد میخورند. مریض میشند. بعد به ادهی به نام دکتر پول میدند و التماس میکنند تا به زور با دوا و تنگه و گریزاری اونا را از توی مشک بیرون میآورند و جان مشک را نجات میدهند. این عقل فضولی است که در کار عقل کل دخالت می کنند و بعد این همه بیماری ها را به وجود می آورند به این حرف آقای حجازی من اضافه می کنم که بیشتر از همه دکترها فضولی می کنند بیشتر از همه در کار عقل کل دخالت می کنند، بیشتر از همه می جوشانند، می سوزانند و یک دنیا به آن اضافه می کنند و کار را به اتمام می رسانند کتابهایی که از فعالیت غلط پزشکان انتقاد کرده و آنها را محکوم می کنند مانند قتل عام پزشکی در پزشکی یافضضا تعلیف دانشمند نامی ایوان ایلیچ خیلی زیادند. اما متاسفانه این کتابها نمیتونند راه نجات به مردم ارائه بدن. واقعا ما در چه زمانه بدی زندگی میکنیم اعتیاط مغز مردم و خراب کرده و اونا رو کاملا گیج کرده هیچکس درست نمی نمیبینه و درست فکر نمیکنه بیشتر از همه پزشکان خودشونو گم کردند و نمیدونن چی کار چیکار میکنن. مردم به من توصیه میکنن که تا این اندازه سختگیری نکنم در قبال پزشکا کمی ملایم رفتار کنم و به اونا توهین نکنم خاننده عزیز اگه شما ببینید شخصی کارد به دست گرفته و میخواد سر بچه یا ببره شما با این شخص چطور رفتار میکنید؟ آیا دست خونالود او را میبوسید و برای این عمل کثیف اون را میکنید؟ آخرین این پزشکان صد نفر یا هزار نفر رو نمیکشن اونا میلیون اونا ها نفر رو اطلاعا میکنن و بدون عذر علنا مردم بیگناه میکشند. البته بیشتر خانندگان که این حرفها رو میخونن خیال میکنند که من افترا میگویم که آنها را توهین میکنم. آنها میگویند مگر پزشکان آدمکش هستند. بله آدمکش هستند و جور آدمکش؟ اگه اونها آتش باشپسخانه های بیمارستان را خاموش کنند و بیماران رو با غذای طبیعی تغذیه کنن اون وقت من قبول میکنم که اونا آدمکش نیستند، بلکه بشردوست هستند. من هرچه میگویم حقیقت حقیقتو میگویم. حقیقت را لخت و با قاطعیت به گوش مردم میرسانم که شاید آنها را بیدار کنم. کسی که شیر خشک را به بچه ها میخوراند او آدم کش نیست. کسی که کباب پخته و گندیده را که توی پیاز خوابانده و نرم کرده به بیماران تجویز میکند آدم کش نیست. کسی که با غذاهای پخته و داروهای سمی ارگانهای مردم را سوراخ میکند، گرسنه نگه میدارد و مسموم میکند، عوض اینکه با آنها غذای طبیعی بدهد و به کار بیاندازد، می برد و دور می اندازد او آدم کش نیست؟ دانشمند قلابی مانند برنارد آنقدر آدمها را کشت که اگر به آنها میگفت بروید فقط میوه و سبزی خام بخورید آن بیچاره ها امروز زنده بودند او آدم کش نیست؟ با این آدمکشان من چجور باید رفتار کنم لازم است دست آنها را ببوسم که باعث مرگ دو بچه من شدند و حالا باعث مرگ میلیون ها افراد بشر می شوند. من پانزده سال پیش جزوه ای فارسی منتشر کردم و در به در آن را به مطب پزشکان، بیمارستان ها، دانشگاه ها و هیئت دولت رایگان توضیح کردم از آن وقتا به امروز رادیو، تلویزیون، روزنامه ها و مجلات راجع به خامخاری زیاد گفته و نوشته اند در نتیجه همه پزشکان کشور از جریان خبر دارند و نمی توانند بهانه بیاورند که درباره خامخاری چیزی نمی با وجود این آنها به شغل کسیف خود به همان ترتیب ادامه می دهند. اشخاص کوتابین مرا بیتربیت حساب کنند. بوگیزار پزشکان از من برنجند. برای من هیچ فرقی ندارد. بگذار آنها بدانند که با آنتی بیوتیک ها، مسکن ها و پروتین های حیوانی هزار هزار مردم را به گورستان فرستادن کار پاک و انسانی نیست، بلکه این جنایت از کسی فهم بتر است. آنها به باید بدانند که همه داروها سم هستند و هیچ وقت در هیچ شرایطی سم نمیتواند کار مفیدی انجام دهد. کار سم فقط مسموم کردن و کشتن است، همین داروها و پروتین حیوانی باعث مریه بچههای بچه های بیگناه من شدند. جگر من خیلی داغ دیده از نادانی پزشکانی که هنوز نمیخواهند بفهمند غذای پخته ارزش غذایی ندارد و اگر پروتئین حیوانی برای انسان مفید است، باید این پروتئین را مثل گرگ زنده زنده و گرم گرم با پوست و سخون بخورند. نادانی پزشکان اندازه است که نه فقط نمیدونن پختن کار غلط و مذریه، بلکه به نظر اونا پختن مفیدم است که هضم غذا رو آسون تر میکنه و میتروپا را میکشد آنها بینند که وقتی غذا رو میپزند تمام مواد حیاتی را خود آتش میخورد حضم میکند و برای حضم کردن انسان به غیر از تفاله و مواد سوختنی که آن هم در بدن میسوزد و از می میرود چیزی باقی نمیگذارد به نظر آنها حزم گندم کامل مشکل است و برای آنکه حزمش آسان تر بشود سبوس آن را می گیرند بعد سفید می کنند بد سفید در می کنند میپزند دو مرتبه میپزند این را کافی نمیدانند و سپس تماما خشک می کنند. در هر کدام از این مراحل هزم گندم تر می شود چون که همه یه مواد حیاتی را با صاف کردن و سپس پختن نابود کرده و فقط تفاله گندم و مواد سوختنی را باقی میگذارند که بدون اینکه به ارگان غذا ب رسونه و از بین میره. به نظر پزشکان همه این عملیات مفیده چون که حضم اونو آسونتر می می‌کند. مخصوصا برای زحمت ندادن به جهاز حازمه بیماران سخت نان توست تجویز می این هم یکی از پیشرفت علم پزشکی محسوب می شود پختن میکروب ها را می شاید این حرف درست باشد یا نه ولی چیزی که مسلم است این است که آن آنتی های طبیعی که بدن را از میکروبا حفظ میکند با آتش نابود میشوند علاوه بر این میکروبا با سلول های اصلی بدن کاری ندارند آنها با سلول های زائد دشمنی دارند من خودم تا 25 سال پیش تمام عمرم را با پزشکان سر و کار داشتم زحمت میکشیدم پول جمع میکردم و آنها را از دست میدادم و آنها و آنها از دستم می گرفتند 25 سال پیش من همه نوع بیماری جمع کرده بودم و یکی دو ماه مانده بود که سکته کنم اما اکنون 25 سال است که دارم زندگی می کنم در این 25 سال من حتی یک دینار به پزشک دارو ندادم 5 و سال من از دست سرماخوردگی یا رنج میکشیدم. کشیدم برونشیت مزمن گریپ، آنجین هفته ها در تب و عرق می سوختم. این 25 سال من در هوای آزاد و سرد تا بیست درجه زیر صف میخوابم حتی یه دفعه توی اتاق نخوابیدم گاهی بدنم مثل یخ میشه کجا هستن این میکروبها؟ اگر گاهی یک بوی یا یک چیز بیگانه ای وارد بینیم شود چند قطره آب بینی کار خودش را میکند آب بینی خامخاران بهترین آنتیبیوتیک است. من این 25 سال را پیدا کردم چند سالم زنده بمانم آن را هم پیدا کردم من خیال نمی کنم آدمی مثل من که و سه سال کلیه ارگان ها را خراب کرده باشد بتواند این خرابی ها را کاملا برطرف کند و تا 150 یا 200 سال زندگی کند. اگر من فردا بمیرم این از خامخاری نیست بلکه نتیجه 53 سال پختخاریه. اما فعلا که خودم را خیلی دور از مرگ احساس می کنم. فقط خامخاری مطلق سلامتی میآورد. کسانی که تازه خامخوار میشوند معمولاً میگویند خامخاری کردن کار مشکلی است. باید گفت که اشخاص بسیار کمی هستند که معنی خامخواری را در عمق خود درک می‌کنند. چقدر انسان باید روشنفکر، عاقل و دوراندیش باشد که تمام دانایی خود و آنچه را که همیشه از رادیو، تلویزیون، کتاب و روزنامه یاد گرفته است از مغز خود بیرون بریزد و قبول کند که با یک راه خیلی ساده و طبیعی همه بیماری ها معالجه می شوند و اصلا بیماری از دنیا ریشکن می و متب، بیمارستان و داروخانه همه تعطیل می شوند کسانی که خامخار می معمولا میگویند، هرقدر غذای خام میخوریم، سیر نمیشویم. دلیل این کار چیست؟ آیا میوه و سبزی ارزش غذای کافی ندارند؟ بعضی اینطور فکر میکنند، ولی همانطور که پخت خارها همیشه سیاه را سفید و سفید را سیاه میبینند، در اینجا نیز، سخت در اشتباهند. آنها ده ها سال شکمشان را با غذای پخته پر کردند. جهاز حازمی خود را بیخود مشغول کردند، احساس سیری کازب کرده اند و خیال کردن که به بدن غذا رسانیدند ولی ارگان ها که غذای طبیعی لازم دارند گرس نماندند نه فقط گرس نماندند بلکه با غذای پخته مسموم نیز شدند اکنون که غذای پخته را کنار گذاشتند و با غذای طبیعی تغذیه می کنند ارگان ها که ده ها سال حسرت این را می کشیدند و خیلی به این غذا احتیاج داشتند ولی سالهای دراز از آن محروم بودند آن را قبول می کنند و احتیاجات خود را تأمین می کنند و سیر می شبند. در نتیجه معده تقریبا خالی و همیشه آماده برای قبول غذای تازه است. غذای پخته برعکس چون غذا نیست، غیرطبیعی و بیگان است. بدن آن را به آسانی قبول نمی کند. مدتها در معده نگاه می دارد و با زحمت فراوان آن را از معده رد می کند. گاهی اصلا به جای اولیه خود برمیگرداند. پختخار خیال می کند که پر بودن معده علامت سیر بودن بدن است ولی این اشتباه بزرگی است. وقتی غذای طبیعی وارد معده میشود، شود معده وظیفه خود را در چند دقیقه انجام می دهد و بلافاصله به روده ها تحویل می دهد. روده ها به نوبت غذا را به ارگانها ها میسپارند و تفاله را دفع می کنند. خلاصه معده پختخار ها سیر ولی بدن آنها گرسنه است. معده خامخار... خامخارها خالی، ولی بدن آنها سیر است چون ارگان ها ده سال گرسنگی کشیده اند این است که خامخار تازه وارد چار پنج برابر آنچه احتیاج روزانه یک انسان کامل است غذا مصرف می کند تا این ارگان های گرسنه را سیر کند آنها را با سلول های سالم مجهز سازد و به حال طبیعی برگرداند خامخار تازه وارد وقتی به اندازه کافی غذای طبیعی می خورد و بدن را کاملا سیر می کند باز هم احساس گرسنگی می کند این دیگر گرسنگی حقیقی نیست گرسنگی کاذب است شخص تریاکی هر قدرم غذا بخورد از تریاک سیر نمی شود غذای پخته با تریاک فرقی ندارد هر دو سم دارند و اعتیاد به وجود می آورند مسئله خامخاری خیلی مهم است غذای پخته سمه بیماری و مرگ ناگهانی است و هیچکس مرگ را دوست ندارد وقتی غذای پخته میبینید مرگ خود را میبینید آن غذا قضا هرقدرم دوست داشتنی باشد یقیناً آن را از جان خود بیشتر دوست ندارید هرقدر غذای پخته خوشمزه تر باشد به همان نسبت زودتر شما را میکشد در خامخاری البته کمی اراده لازم است ولی از همه مهمتر عقل لازم است امیخ فکر کردن به دانایی طبیعت ایمان آوردن و تصمیم قطعی گرفتن لازم است پختخاری مردم را چنان اسیر خود کرده که مردم برای فرار از خامخاری دنبال بهانه می گردند مهمان داریم چه کار کنیم؟ به مهمانی می‌رویم چکار چه کار کنیم؟ مسافرت می رویم چه کار کنیم؟ در اداره چه کار کنیم؟ و خیلی بهانه‌های دیگر خانه نگه عزیز وقتی به مهمانی می‌روید، و می مردم دور میز و خوراک های به اسطلاح لذیذ تناول می کنند، شما که حقیقت را شناختید کمی اراده داشته باشید در جلوی مردم خود را چون یک نمونه قرار دهید و به آنها بفهمانید که اشتباه می‌کنند آنها غذا نمی‌خورند بلکه بیماری می‌خورند برای خود مرگ درست می‌کنند و ندانسته خودکشی می‌کنند خیلی دیده شده که اشخاص چاغوچله و ظاهرن سالم جلوی میز مهمانی معده خود را پر کردند همانجا به زمین افتاده و فوت کردند شما خامخار بی اراده. اگر خود را عاجز نشان دهید و جلوی مردم شروع به خوردن غذای پخته کنید هم به خود ضرر رسانده اید و هم برای تبلیغ خامخواری حرف های شما بی اثر خواهد شد اگر شما مسافرت می روید یک کیف پر از خشکبار و میوه همراه داشته باشید اگر با ماشین خودتان می روید یک یخچال یخی بخرید و با میوه و سالادان را پر کنید در اداره اگر یخچال دارید همه چیز می توانید در آن بگذارید اگر در بیابان کار میکنید یک مشت خشکبار در جیب خود بریزید و راه بیفتید. دیگر بهانه لازم نیست. اگر شما به غذای طبیعی دسترسی پیدا نکنید آیا میتوانید با تریاک خود را سیر کنید؟ وقتی وارد یک رستوران میشوید و یک پرد چلو کباب میخورید، در حقیقت همین کار را مرتکب میشوید. این چلو کباب نه فقط به ارگان شما غذا نرسونده و نه فقط بدن شما را سیر نکرده بلکه قرسنتر کرده. چرا که اگه دیروز یه سیب خورده بودید اکنون نصف اونم نفله کردید یعنی نصف انرژی سیب باید صرف خونسا کردن زردل چلو کباب و بیرون راندن آن از بدن شود اگر قبول کنیم که غذای پخته ارزش غذایی نداره پس همه پخته خارها که غذا میخورند همین نصف میوه و سبزی خام که گاهی برای تفری میخورند ببینید غذای طبیعی چه اندازه کامل و ارزنده است که این مقدار کمشم هم میتونه مردم رو روی پا نگه داره البته نصف زنده با ارگان های گرسنه شده و مسموم چرا می خامخواری مطلق واجب است؟ این هم دلیل دارد وقتی غذای پخته وارد بدن می شود، یک قسمت از آن می سوزد و حرارت زائد تولید می کند که پختخار با آب و کولاها یا چای و غیره آن را خاموش می کند. یک قسمت از آن هم سلوله زائد می و اونو تغذیه میکنه. از طرف دیگه غذای پخته سموم مختلف در بدن تولید نمونه و به بدن پخش میکنه اگر این سم که هر روز با غذای پخته وارد بدن میشه در بدن باقی بمونه مردم مصموم مسموم نموده و در عرض چمه به حلاکت میرسونه ولی بدن همیشه در, ولی بدن در... همیشه در حال دفاعه قسمت عمده این سم را رو هر روز توسط ادرار مدفوع عرق و غیره از بدن دور میسازه فقط دو سه درصد اون در بدن باقی میمونه که بین مفاصل در رگها و غیره مخفی شده و دائما روی هم جمع میشه وقتی خامخار قلابی هفته یک دفعه غذای پخته بخوره این دفعه دیگه دو سه درصد اون نیست که تو بدن میمونه بلکه تمام صد درصد اون در بدن باقی میمانه و سمی که در بدن حل شده و آماده دفع شدن بود بار دیگه به جای خودش برمیگرده و سلولای زائد که گرس و در حال مردن هستند دوباره جون می کسایی که کتاب خامخاری و خوب مطالعه می کنند، سخت تحت تاثیر قرار می‌گیرند، تصمیم میگیرند خامگیاه خامگی شوند شروع می کنند, کارت عضویت می گیرند چند ماه خامخاری می کنند و نتیجه خوب هم می‌گیرند. به همه تعریف می کنند که چطور از همه ناراحتیا نجات پیدا کردند گاهی به کارهای جمعیت نیز کمک می کنند، حق عضویت را مرتبا میپردازند و زود به زود به باشگاه رفت آممت میکنند. مدتی میگذره ملتفت میشیم دیگه پیداشون نیست لا دستورات دست فراموش کرده و دوباره پخت کارار شدن. دائما کنا می روند و تازه ها میآیند، نزدیک به 900 نفر عضو شدند. ولی از آنها فقط 45 نفر روزی ده ریال به باشگاه کمک می‌کنند. بعضیا که سخت بیمارند و جانشان در خطره، خامخار میشن از بیماری که خلاص میشن خیال میکنن حالا که خوب شدن میتونن دوباره پختخاری کنن مثل اینکه خامخاری داروه در این مورد یه نمونه تاسفاوار داریم حال خانم مریم نشانبرجان که عکسش همراه با بیوگرافی او در صفحه آخر کتاب خامخاری چاپ شده در عرض دو سال خامخاری روز به روز بهتر میشد در اداره کار میکرد ولی مدتی دیدم پیداش نیست او که هر روز از اداره به باشگاه می اومد و حتی به ما کمک می کرد و از فعالیت ما فیلم می گرفت معلوم شد که رفته پخت خاری کرده حالش به هم خورده و به بیمارستان رفته معلومه که کار بیمارستان چیست آنجا مردم را میکشند این خانوم بیچاره را نیز با عمل غلط کشتند و از بین بردن همین اشتباه را خود من نیز مرتکب شدم دختر بیچاره من در ده سالگی در یک بیمارستان در هامبورگ زیر دست یک پزشک جلاد به آستانه مرگ رسیده بود او رو از بیمارستان بیرون کشیدم با خامخاری به طور مجزاسای نجات دادم و به کشور آوردم. خیال کردم که او دیگه معالجه شده و میتونه مثل سایرین همه چیز بخوره و فقط کمی میوه زیادتر بخوره این اشتباه من باعث شد که دخترم از دست بدم بیر خیربنر در کتابای خود هیچ وقت خامخاری مطلق نداده اکنون نمیخوام دیگران این اشتباه بکنند. بعضی پزشکان که خامخار میشن عقیده دارن که مردم باید خامخاری و کم کم شروع کنند عادت کنند و میگویند آوانسیان نیز همین عقیده را دارد من هیچ وقت چنین چیزی نگفتم کسی که میخواد کم کم خامخاری را شروع کند یا خامخاری را فقط امتحان کند او باید خام... و پخته را قاطی نکند بلکه در هفته چند روز پخته بخورد و چند روز را خامخاری کند و مقایسه کند که چطور در, که چطور در روزای پخته خاری احساس سنگینی میکند و ناراحت است ولی برعکس در روزای خامخاری سبکی و راحتی احساس میکند البته این امتحان را فقط برای دو سه هفته میشه انجام داد مردم عادی به حرف علم علاقه زیادی دارند آنها مایلند راجع به خامخاری از دهان بشنوند دوست دارن خامخاری با حرفای علمی ثابت شود حیعت مدیره نیز عقیده دارد که اگر راجب فلسفه خامخاری پزشکان, سخن، پزشکان سخنانی بکنند مردم بیشتر علاقه نشان داده و بیشتر جمع میشن مخصوصا کسانی که تازه میخوان خامخارشن ما همین رو هم کردیم آقای دکتر محمد کار را آوردیم و رئیس حیعت مدیره هم کردیم ولی به زودی معلوم شد که این آقایان پزشکان هر قدرم به غذای طبیعی علاقه داشته باشند بازم از حسابهای علمی و آزمایشگاهی به ترکیبات غذایی و خاصیتهای مختلف میوجات یه مرتبه نمیتونند دست بکشند اگه راجب این حسابهای پوش و بیارزش صحبت نکنند و فقط بگن غذای پخته و حیوانی نخورید غذای گیاهی را هر وقت و هر قدر که دوست دارید بخورید اگر این دستور دو کلمه ای و بگن دیگه هیچ حرفی ندارن که بزنند و هر قدرم که بزنند بیخود و بیارزش و حتی مذره آزمایشگاه طبیعت راست یا آزمایشگاه پزشکان مسئله پروتئین مغز مردم را کاملا خراب کرده و آنها را دیوانه کرده است وقتی راجب خامخاری صحبت می‌شود اولین سؤالی که پخت پخته‌خوارها می‌کنند این است پس پروتئین چه می‌شود وقتی طبیعت بدن انسان را ساخته کلیه موادی را که بدن برای فعالیت طبیعی خود احتیاج دارد با حسابای تاکی چا کرده و در یک غذای گیاهی جا داده است. پس گیاهان به تنهایی غذای کامل هستند و هیچ چیز در آنها کم یا زیاد نیست. اما وقتی این غذای طبیعی و زنده را با آتش می‌کوشند، کلیه مواد حیاتی که در آن موجود است می‌میرد و نابود می‌شود. زیست شناسان خار در مواد غذایی چند عنصر را پیدا کرده و گذاری کردند. پروتین،, پروتین، ویتامین، مواد مدنی و غیره آنها مشاهده کردند که موقع پختن این ویتامین ها نابود می شوند حساب کردند یکی از آنها تماما نابود می شود دیگری 50، 60، 70 یا 80 درصد از ارزش از ارزش خود می یکی در 50 درجه دیگری در 60، 70 یا 80 درجه حرارت نابود می شود دانشمندان به جای اینکه که پخت و را محکوم کنند و مصرف آن را در داخل بیمارستان ها ممنوع کنند شروع می کنند به مصنوعی ساختن مواد خراب شده اگر پخت را قدقن کنند این علمی نمی شود این کار سادهی ای است که ارزش علمی ندارد به علاوه مردم را چگونه می توانیم از خوردن غذاهای به لذیذ باز داریم یک لحظه فرض کنیم که ویتامین مصنوعی مسنوعی واقعا به درد می خوردن. اونا تا به حال سی چل، پنجا یا یا عدد از اینها را کشف کردند. پس این ۱ یا ۱۹ را که هنوز کشف نکرده اند چه می شود. ما میدانیم که گندم زنده غذای کاملی است. وقتی گندم زنده را در فر با آتش قوی می و آن را به خاک سر تبدیل می کنند، سپس این خاکر که اسم آن را نان گذاشته اند به جای غذا به رخ مردم میکشند، معلوم است که با خوردن این خاک مردم بیمار میشوند وقتی به دکتر مراجعه میکنند یا ویزیت گران میپردازند و دکتر در عوض این پول اسم چند ویتامین مصنوعی را روی یک کاغذ کوچک مینویسد و به بیمار میدهد آیا این چند نوع ویتامین مصنوعی که به غیر از هم چیزی نیستند میتونند جای ویتامینایی رو که بیمار در طول دهها سال در نان نابود کرده پر کنند میتوانند نان را به گندم زنده تبدیل کنند راستی این علم است یا مسخره بازی با این مسخره بازی پزشکان با جان مردم بازی می‌کنند. خواننده عزیز خوب توجه کنید مردم پختخار در مدت ده ها سال هزاران و مواد حیاتی غذا را در آشپزخانه خود نابود کردند و اکنون با دوسه 3 قرص شیمیایی می‌خانی ها را تعمیر کنند. پروتئین حیوانی یعنی مواد گوشتی مانند کباب، استیک، آبگوشت، خورشت، مرغ، ماهی، لبنیات و غیره پزشکان در این مواد حیوانی چیزهایی پیدا کردند که اسم آن را اسیدامین گذاشتند. نمیدانم که آنها از کجا فهمیدن که این پروتئین یا این اسیدامین ها برای انسان مفید است. آنها فقط خیال کرده و فرض می کنند. چون در حقیقت پروتین حیوانی با اسیدامین های خود خطرناک دشمن سلامتی مردم است. آنها اینطور خیال می کنند و فرض می کنند، ولی ما یقین داریم که هر کس پروتین حیوانی میخورد بیمار است و، هرکس نمیخورد سالم. کسی که به باشگاه ما میآید و سوالی می کند من میگویم هرچه دکتر گفته برعکس آن را عمل کند. گوشت و لبنی ها تجویز کرده نخورید. میوه و سبزی خام و قدقند کرده بخورید. بیچاره بچه های من چهارده سال چه زجرایی کشیدن و رنجی و تحمل کردند. این کباب لعنتی نرم به اصطلا خوشمزه و گندیده، کلیه ارگان های بچه هایم را مسموم و خراب کرده بود. آنها را در تبریز، تهران، هامبورگ، پاریس و سوئیس به معروف ترین پزشکان معرفی کردم. هر نوع آزمایشی که وجود داشت انجام دادم ولی هیچ کدام از این دانشمندان فکرش را هم نکرد که بدون غذای طبیعی هیچ کس نمیتواند زنده بماند. نادانی این دانشمندان پخت خار حد و حدودی ندارد. بیشتر از پنجاه درصد مردم که به باشگاه میآیند ناراحتی معده کلیت گاستریت، زخم میده، زخم عشر و غیره دارند که میترسن میوه خام بخورند پزشک به اونا توصیه میکنه کباب گندیده و نرم بخورند ولی میوه خام نخورند این بیچارهها باور میکنند که پزشک حتما چیزی میدونه و نمیتونه اشتبا کنه مخصوصا که همه پزشکان همین دستور میدن. میدند اونا این دستور رو اجرا میکنند روز به روز حالشون بدتر میشه تا بالاخره مرگ بی موقع به سراغ آنها میآید. پروتین و باز هم پروتئین که خدای پزشکان است. آنها پروتئین را می پرستند. شیر که یکی از مضر ترین غذا هاست، پزشکان در آزمایشگاه خود آن را آزمایش می کنند و در آن پروتئین و کلسیوم می بینند و شیر را که غذای خیلی ناقصی است، مفید و حتی غذای کامل تصور کرده و به مردم معرفی می کنند. طبیعت شیر را به وجود آورده که نوزادان پستانداران چند ماه از آن استفاده کنند تا غذای طبیعی فراهم شود. گاف خیلی خوب میفهمد که شیر غذای کامل نیست و فقط برای کمک ساخته شده. آن هم برای مدت کوتاهی. گاف بعد از اینکه چند ماه به بچه خود شیر داد، او را از خود دور می کند و شیر را قطع کند شیر و لبنیات غذاهای خیلی مضر و خطرناکی هستند. ولی پزشکان اینطور فکر نمی کند آنها در شیر ماست و پنیر چیزهایی میبینند و خیال میکنند برای انسان مفید است و خوردن آنها را توصیه میکنند مسئله پروتئین مردم را کاملا گیش کرده است پروتئین یعنی مواد گوشتی و پختخاران دائمان به فکر گوشت هستند که مواده لاغر شوند من در کتاب خامخاری شرح دادم که پختخارها دو بدن دارند بدن اصلی و بدن کاذب از غذای پخته سلولای زائد، مفخور و بیارزش به وجود میاد. گوشت، نان و برنج تماماً مواد حیاتی خود را در آتش میسوزانند و فقط پروتئین نگه میدارند که به بدن کاذب غذا برسونه. در کوچه تماشا کنید چطور شکم گنده ها پشت سر هم عبور می کنند، صورت های گرد با رنگ قرمز و مردم خیال می کنند اینها علامت سلامتی است ولی اشتباه می کنند زیرا در حقیقت اینها علامت بیماری است. بدن اصلی این اشخاص و ارگانای اونا بسیار لاغر و ضعیفند. اگر سلولای زائد بدن دروغین این اشخاص را یک مرتبه خالی کنیم فقط پوست و استخوان باقی میماند. یک اسکلت وحشتناک که از گورستان بیرون آمده است. ولی خوشبختانه خامخاری بدن دروغین آنها را یک مرتبه خالی نمی‌کند. مثلا اگر ده کیلو خالی می‌کند در عوض بدن اصلی 3-4 کیلو چاختر میشه و در نتیجه فقط 6 فیلو از وزنش کاسته میشه. یک خامخار داریم که 160 کیلو وزن داشته و با ما خامخاری 90 کیلو وزنش کم میشه. او اکنون یک انسان سالم 70 کیلوییه. حالا توجه کنید اگه حساب کنید که موقع خامخاری بدن اصلیش 30 کیلو چاختر شده پس نتیجه میگیریم که یه انسان پختخار 40 کیلوی 120 کیلو بار رو به دوش گرفته. روزمین حرکت میکرد و پول گیر میآورد. تا به این بدن دروغین و به این گوشتای وحشتناک غذای دلخواه خود را برساند این همین گوشت و همین پروتئین است که پزشکان از کمبود آن وحشت میکنند همین اسیدامینه که شب و روز فکر آنها را مشغول کرده است این علم است که 120 کیلو پروتین به دوش یک شخص 40 کیلویی بار میکند حالا ببینیم طبیعت چه میکند طبیعت دقیقا حساب کرده که بدن انسان برای فعالیت طبیعی خود از هر یک از مواد حیاتی به چند اندازه لازم داره و اونا رو جمع کرده و در یک غذای خام گیاهی قرار داده حساب طب... حساب طبیعت کاملا دقیقه هر یک از غذاهای خام گیاهی،, خام گیاهی در حال زنده غذای کامل و حساب شده است کار طبیعت را تماشا کنید یک دانه کوچک را در درون خاک می اندازد طبیعت از این دانه ناچیز درخت عظیمی به وجود می آورد و بهترین و ارزنده‌ترین غذاهای طبیعی را مانند بادام، گردو، پسته، سیب و یا گلابی از آن آویزون میکنه این آزمایشگاه طبیعت وقتی ما یک سیب، انگور یا گردو می خوریم مطمئن هستیم که هر قدر پروتئین، ویتامین و سایر ترکیبات غذایی که بدن ما احتیاج داره در آن قرار دارد هم که ما میشناسیم و برای آنها اسم گذاشتیم و هم آنهایی که هنوز نمیشناسیم به اندازه هایی که طبیعت معلوم کرده در آنجا موجود است. نه چیزی زیاد است و نه چیزی کم. به طوری که از این نوع غذاها سلول سالم و کامل به وجود می که تمام ارگان ها را به بهترین وجه به فعالیت طبیعی می گوارند. من عقیده دارم که همه غذاهای گیاهی به تنهایی غذای کامل هستند. به دلیل آنکه فیل با علف جنگل، زرافه با برگ درخت، شطور باخار بیابان، اسب با کاه جو و گاو با یونجه تغذیه میکنن انسان میتونه با یه نوع میوه احتیاجات بدن خودش رو تأمین کنه. البته ما مجبور نیستیم با یه نوع غذا زندگی کنیم، ولی اگه در جایی بیافتیم که فقط یه نوع غذا وجود داشته باشه، نمیمیریم و به زودی مثل حیوانهای دیگر میتوانیم با یه نوع غذا تغذیه کنیم. من وقتی تغذیه ی حیوان رو مثال میزنم مردم اعتراض می که ما حیوان نیستیم نه خیر ما نیز یک نوع حیوان هستیم فرق ما با پستانداران دیگر این است که آنها نشخار می و مقدار زیادی سلولوز دف می ولی چون انسان به غذای فشرده و کم سلولوز عادت کرده دستگاه گوارشی او به این نوع غذاها عادت کرده انسان اصلا می به وجود آمده است حیوان با یک نوع غذا تغذیه می کند و مایه ای آنزیمی که این غذا رو میشکند همیشه به فراوانی حاضر است چون حیوان به این نوع غذا عادت کرده انسان چون غذاهای مختلف میخورد، معمولاً های مختلف حاضرند که این ها را بشکنن و برای جذب وازل کنند وقتی ما یه غذای شیرین مثلا خرما میخوریم و از اونا سیر میشیم، معلوم میشه آنزیمی که این خرما رو میشکنه تموم شده ولی آنزیم‌های دیگه حاضرند تا مثلا خیار فرنگی و یا یه غذای دیگه رو بپذیرن و اونو بشکنن. حیوانایی که با یه نوع غذا تغذیه میکنند، آنزیمی که این غذا رو باید بشکنه همیشه به فراوونی حاضر دارن. اونها مقدار زیادی غذای سلولوزدار میخورند، سلولوز رو دفع میکنن و یه مش غذایی که از اونجا گیر میارن و از لحاظ ارزش غذایی با بادوم، گردوسی و و یا انگور فرقی نداره. به طوری که من مکررن تکرار کردم هر کدام از غذاهای گیاهی خام غذای کامل است. طبیعت چیزی ناقص درست نکرده. خار بیابان، برگ درخت، یونجه یا میوه ظاهراً به هم شباهتی ندارند ولی باطناً یک خاصیت دارند. یعنی غذایی کاملن که همه چیز در خود داره. ولی تمام غذاهای پخته دنیا همگی با هم به غیر از توفال و سم چیز دیگه‌ای نیستند. وقتی که ما غذای طبیعی میخوریم هر نوع که می‌خواد باشه مطمئنیم که همه ویتامینا پروتینا و سایر مواد شناخته شده و جمعا وارد بدن میکنیم پزشکان عقیده دارند ویتامین‌ها که ظاهر غذا رو نشون می بدون تغییر شکل به بدن رسند این اشتباهه ویتامینا ترکیباتی هستند که بعد از وارد شدن به بدن میشکنند و تبدیل به مواد اولیه اتمها میشند که در همه گیاهان شبیه هم هستند سپس بدن مطابق احتیاجات خود ترکیبات جدید می سازه. پس همه اظهارات پزشکان راجع به ترکیبات که ظاهر غذا را نشون میده همگی پوچ، غلط، متضاد و خطرناک هستند. مانند اینکه که حیوانی را با اسیدامینای خود مفید و میوه زنده را مزر تلقی می کنند. پس این حساب غلط و خطرناک را چرا ادامه می دهند؟ چرا مطالعه اساسی نمی کنند چرا عمیق فکر نمی کنند آنها خیال می کنند ماده که خود در غذاها می همین را دارد و چیز دیگری نیست و برای این کار صورت های تولودراس سعی می کنند که از بالا تا پایین صفحات کتاب را پر می کنند این صورت هیچ ارزشی ندارند چون ظاهرش در هر ماده غذایی فقط چند عنصر نشون میده ولی باطنش همه چیزیه که بدنه یه موجود زنده احتیاج داره داره مثلا آیا آنها میتونن در خار بیابان در علف جنگل یا برگ درخت همه موادی را که فیل شطور یا زرافه احتیاج دارن و پیدا کنن و ببینن پس این حیوانات کتاب ندارند که ببینند پروتئین را از کدام گیاه ویتامین را از کدام گیاه باید بدست آورند پزشکان محترم این حساب های غلط و خیالی را از مغزتان بیرون کنید با این اصابای متضاد و غلط مغز خود را خراب کردید کافی نیست مغز همه مردم هم خراب کرده و اونا را گیج می کنید در نتیجه همه کوچک, در نتیجه همه کوچک و بزرگ دائما از پروتئین و ویتامین صحبت می کنند وقتی با ترکیبات غذایی شناخته شده توانستید یک برگ سبز بسازید آن وقت مطالعات شما ارزش پیدا می کنند ما خامخاران وقتی غذای طبیعی می خوریم، میدانیم که هر چیزی را که بدن ما به آن احتیاج داشته است خوردیم ما به دانایی طبیعت ایمان داریم و میدانیم که طبیعت هیچ وقت اشتباه نمیکنه و غذای ناقص درست نمیکنه. پس حساب های آزمایشگاهی که این غذا فلان ویتامین را دارد و آن یکی فلان ویتامین را این فلان خاصیت را دارد و آن یکی فلان این برای چشم مفید است و آن یکی برای قلب این حرفها کاملا چرند و دروغ است و ما به این حرفها ابدا احتیاجی نداریم بنابراین کتابایی که با این حسابها و صورتها صفات خود را پر کردن نباید خوندشان. خوندن این قبیل کتابان نه فقط وقت تلف کردنه بلکه راهنمای غلطیه که مردم و رو از راه راست منحرف کرده و در راه غلط و خطرناک قرار میده گاهی خانندگان مطلبی و میخونن که زیاد بهش توجه نمیکنند پزشکان توصیه می پروتئین پروتین مرده و گندیده ی حیوانی غذای اصلی انسانه، نه غذای زندگی طبیعی و با این توصیه باعث مرگ نه فقط یا هزاران نفر بلکه باعث مرگ میلیون ها نفر میشن یعنی میلیون ها انسان را قتل عام می کنند داروها نیز در این کار کثیف جای خود را محفوظ نگاه میدارند. پزشکان انسان دوست و روشن فکر وقت آن رسیده که دیگه بیشتر از این نمیتونید مردم بیگناه و زود باور و با غذای پخته و داروه شیمیه قتلام قتل کنید. آتش آشپزخانه ها های بیمارستان ها رو خاموش کنید و بیماران داغدیده و با غذای طبیعی نجات دهید. شما به مسئله تغذیه هیچ توجهی ندارید. هیچ وارد آشپسخانه نمیشید. آشپز را آزاد گذاشتید که هر نوع غذای بیماریزا که خودش میخواد به و جله بیماران بگذاره شما خیال میکنید که اگر عادت پختخاری بدین طریق ادامه پیدا کند میتونید با داروها و با عمل جراحی بیمارا و معالجه کنید این کار غیر ممکنه شما باید بیماری بیماریو از میون بردارید و این عامل همین پختخاریه که شما اصلا بهش توجه نمیکنید. و داروهای سمی نیز باعث همین کار هستند علمی که شما سالهای سال با ایمان کامل یاد گرفتید مغز شما را با فرمولای پیچیده اشغال کرده. شما هیچ وقت نمی‌تونید باور کنید که با تعویز یک بشقاب غذای طبیعی همه بیماری ها برطرف می‌شود و کل فرمول‌های علمی راجع به ترکیبات غذایی باطل می‌شود. در اینجا بیجا نیست دیگه تکرار کنیم که پزشکان در آزمایشگاه ساختمان ظاهری گیاه را می‌بینند و از باطن آن خبر ندارند. غذاهای گیاهی ظاهرن با هم دیگه فرق دارن هر یک چند و ویتامین پروتئین و غیره نشون میدن ولی باطنا هر یک از آنها داره دارای همه موادی هستن که بدنی انسان احتیاج داره طبیعت اونا رو کامل تایه کرده به طوری که اونها باطنا همون خاصیتو دارن به این معنی که اگه شخصی یه نو غذا بخوره یا صد نو این صد نو غذا از آن یک نو چیز زیادتری نداره پس نتیجه میگیریم که ترکیبات ظاهری گیاهان با هم و رنگ از هم دیگه فرق دارن ولی در باتن کاملا شبیه همند بعد از خوردن اونا اتم های این ترکیبات از هم جدا میشن بدن ترتیب این اتمها ها را عوض کرده و از آنها ترکیبات دلخواه خود را میسازد پس ترکیب ظاهری گیاهان مسئله ای نیست و مردم احتیاج ندارن با این بی معنی پوچ و متضاد وقت خود را تلف کنند زمنن اگه پزشکان میخوان با این آزمایشات و مطالعات به اصطلاح علمی به جایی برسند، این میل خودشونه بذارن حسابا رو برای خودشون نگه دارن تا زمانی که تونستن حتی یه سلول زنده بسازن و به ما نشون بدن اشخاص عادی چیکار دارن که بدونن تو این قضا چی و چی نیست همه که نمیخوان پزشکن چرا با این حسابای پوچ بیمنی و غلط میلیون ها کتاب می نویسن رادیو و تلویزیون روزنامه و مجله به کار می و سر مردمو گیج میکنن من نوشتم که هر یک از غذاهای گیاهی کاملا و میتونن احتیاجات یه موجودو تامین کنن این عین حقیقته که یه دفعه دیگه اونو تصدیق میکنن ولی این حقیقت برای همه به آسونی قابل هزم نیست بیشتر مردم به آسونی باور نمیکنن که انسان میتونه با اینو غذا زندگی کنه بذارونو تو عقیده خودشون بمونن چون انسان به قدری غذاهای متنوع گیاهی داره که هیچ وقت مجبور نمیشه مثل حیوانات دیگر با یه نوع گیاه کنه ولی اگرم نمی میره؟ در خاتمه لازم توضیح بدم که به گیاهان خاصیت مختلف نسبت دادن بیخود است به این که یه غذای زندگی گیاهی برای همه بیماری ها خوب است و همه گیاهان زنده برای بیماری مفیدن. وقتی ما غذای خام گیاهی بخوریم هر نوعی که میخواد باشد، مطمئنیم که غذای سالم میخوریم ولی کسانی که بخورده میخورند فقط توفاله سم و بیماری میخورند و برای خود تدارک مرگ را میبینند. سرگذشت جمعیت لازم میدانم راجع به سرگذشت جمعیت خامخاران توضیحاتی بدهم سالها پیش وقتی من ملتفت شدم که باعث مرگ دو فرزندم دستور بیعقلانه پزشک بوده که میوه و سبزی خام یعنی یگان غذای اصلی انسان را برای آنها قدغن کرده بود مطالعات خود را ادامه دادم و به این نتیجه رسی، نتیج رسیدم که پخت و پز عملی از خیر طبیعی غلط و خطرناک که کلیه مواد حیاتی را در غذای طبیعی میکشد نابود می کند و آن را به توفال و سم تبدیل نموده باعث این همه بیماری ها و سایر بدبختی های انسان می شود. وقتی به این کشف بزرگ نائل شدم برای بیدار کردن مردم این دنیا کلیه پسنداز خود را به کار بردم به زبان ارمنی، پارسی و انگلیسی کتاب چاپ کردم و سه هزار کتاب و صدها هزار اعلامیه به همه کشورهای جهان، به مشاهیر، دانشمندان، روزنامه ها، مجلات و غیره فرستادم از همه جای دنیا برای کتاب من سفارش ها آمد و ده ها هزار نامه به دست من رسید که ثابت میکند در همه جای دنیا مردم با خامخاری از بیماری های سخت نجات پیدا میکنند وزارت بهداری هندوستان کتاب انگلیسی مراموفی مفید تشخیص داده رسمن از من اجازه چاپ گرفته و آن را به زبانهای مختلف هندی ترجمه و منتشر کرد تصمیم داشتم کتاب خود را به زبانهای فرانسه، آلمانی، اسپانیولی و عربی ترجمه و منتشر کنم و همچنین از نامه خیلی جالب کتاب بسازم و فعالیت جهانی خود را گسترش دهم ولی دوستان و خامخاران پارسی اصرار داشتند که جمعیت و باشگاهی در تهران تأسیس کنم با چند نفر از مؤسسان مبلغی بین خود پول جمع کردیم اساس ای تنظیم کردیم و کار را شروع کردیم دو اتاق همکف بزرگ خود را با آب و برق و تلفن به رایگان در اختیار باشگاه گذاشتم و دو سال و نیم تمام وقت خود را در اداره جمعیت باشگاه و رستوران به کار بردم اعضایی جمع کردم که به فلسفه من و اساسنامه جمعیت مومن و وفادار بودند و فعالیت میکردند. کمک میکردند، جلسته های دوستانه تشکیل میدادند. راجع به که از خامخاری آیدشان شده بود سخن میگفتند. هدیه جمع میکردند و مثل یک فامیل بزرگ شوخی میکردند و به این طریق 400 تا 500 نفر عضو جمع کردیم. یک سال پس از تشکیل جمعیت آقای جواد رمضانی که سخت بیمار بود و پزشکان معده و اصناعشر او را بریده و تغییراتی در شکم ایشان انجام داده بودند، در حال مرگ به گفته خودشان به باشکاه آمد و عضو شد، خامخوار شد و از مرگ نجات پیدا کرد. او با علاقه خاصی به فعالیت جمعیت چسبید و به عضویت هیئت مدیره انتخاب شد. متاسفانه ایشان فلسفه امیق و کاملا ساده خامخاری را هیچ وقت نتوانستند درک نمایند. ایشان گاهی میگفتند، فکر من هنوز به فکر آوانسیان نرسیده ممکن است یک روز برسد. من سالها منتظر این روزها بودم ولی بیخود. آقای رمضانی می گفت آوانسیان نباید به پزشکان و به علم پزشکی حمله کند و فعالیت غلط آنان را محکوم کند. ولی من این عقیده را نداشتم و دوست داشتم حقیقت را روک به مردم بگویم. وقتی کارهای باشگاه کمی رونق پیدا کرد طبقه اول خانه خود را خالی کرده با یک سوم کرایه ای که دلال ها پیشنهاد می کردند به اتاقهای قبلی اضافه کردم و در اختیار باشگاه گذاشتم سه دنگ خونه به همسرم تعلق داره من از قسمت خودم کرایه نمی گیرم. با خرج خود درب مخصوصی به خیابان باز کردم و یک زیرزمین سی متر مکعبی نیز برای انبار ساختم اعضای جمعیت جلسههای های مرتب تشکیل نمیدادند. چند نفر از اعضای فعال بین خود هیات مدیره ای تعیین کردیم و برای اینکه به آقای رمزانی ثابت کنم که او در نظریات خود اشتباه می کند به او اجازه دادم که خود هیات مدیره را انتخاب کند. او دکتر محمد کار استاد دانشگاه پزشکی تهران را به عنوان رئیس هات مدیره انتخاب کرد. این دکتر کتابی نوشتن به نام خامگی آخاری. پر از فرمول پوچ و بیمنی آزمایشگاهی و خودش نیز با سخن را بیارزش وقت حاضرین را تلف میکرد. او به زودی در باشگاه بلوایی برپا کرد که ما مجبور شدیم طبق ماده 29 اساسنامه جمعیت ایشان را از عضویت اخراج کنیم. ایشان با چند نفر از همفکران خود رفتند، سرمایهگذاری کردند و در خیابان وزرا باشگاهی به نام خامگی خاری علمی باز کردند، هر نفر چهل پنجاه 50 هزار تومان ضرر کردند و آنجا را بستند. چند نفر نیز از کار خود پشیمان شده و به باشگاه ما بازگشتند. آقای رمضانی از این عمل غلط خود عبرت نگرفت، بلکه برعکس به جای یک پزشک دو سه پزشک دیگر برای سخنرانی وارد باشگاه کرد. در کتاب خامخاری که در آن فلسفه خامخاری تفسیر شده و با راهنمایی این کتاب جمعیت خامخاران تشکیل شده است، به چند نکته اساسی که غلط و مضر بودن علم پزشکی را ثابت می کند اشاره شده که من در اینجا آنها را ذکر کرده و فعالیت غلط پزشکان را علناً محکوم می کنم ماده یک در طبیعت بیماری وجود ندارد بیماری نتیجه تغذیه غیرطبیعی است که مردم خودشان آن را به وجود آوردند در درجه اول پزشکان هستند که در بیمارستان ها با غذای پخته و داروهای صمی دو عامل اصلی بیماری ها بیماری می و مردم را میلیون میلیون قتل آم می کنند. ماده دو کلیه ی فرمول های آزمایشگاهی راجب ترکیبات غذایی مانند پروتئین ویتامین و غیره به قدری غلط مزز... متضاد و هستند که پروتئین حیوانی با اسید آمینه‌های گنده و کاملا به سم تبدیل شده را مفید اعلام کنند و مصرف آن را توصیه می‌کنند ولی میوه و سبزی زنده و شاداب را که یگانه غذای انسان است موزر تلقی کرده و مصرف آن را من می کنند ماده 3 قانون طبیعت می‌گوید که همه غذاهای گیاهی به تنهایی غذای کاملند مثلا خار بیابان برگ درخت و علف جنگل در ظاهر هیچ شباهتی به هم ندارند ولی احتیاجات بدن شتر، و فیل کاملا یکی هستند، پس غذاهای گیاهی ظاهرا فقط چند عنصر نشون میدن ولی باطنن همه موادی را که بدن یک موجود زنده احتیاج دارد، دارا هستند به طوری که اگر یک نوع گیاه بخورید یا, یا صد نو، این صد نوع از آن یک نو هیچی زیادتر ندارد پزشکان فقط ظاهر گیاه را میبینند و از باتن غذا خبر ندارند. به طوری که هر چه خودشان در آزمایشگاه می‌توانند میتوانند ببینند، خیال میکنند که فقط همانها هستند و برای آنها فرمول ها می‌کنند. میکنند. صفای کتاب را پر میکنند و به فروش میرسانند. با این کار کتابینانه و کودکانه هم خودشان گول میخورند و هم مردم را گول میزنند. ماده چهار پزشکان برای گیاهان خاصیت مختلف تعیین کنند و این برای قلب خوب است، آن یکی برای کبد، این برای اصاب خوب است، آن دیگری برای چشم و از این قبیل تصورات و خیال بافی ها علمی می در حقیقت همه قضاهای زنده گیاهی یک خاصیت دارند به طوری که یک گیاه برای همه بیماری ها خوب است و همینطور همه گیاهان برای یک بیماری خوب هستند. ماده پنج در دنیا فقط یک بیماری اساسی وجود دارد که عبارت است از, از گرسنگی ارگان ها در نتیجه کمبود غذای طبیعی و مسموم شدن این ارگان ها توسط غذای پخته و داروهای شیمیایی این خرابکاریها و نارساییها در ارگان های مختلف بدن به شكلهای مختلف و به علایم مختلف ظاهر میگردند که پزشکان به عنوان بیماریها و علایم مرض آنها را طبقهبندی نموده و صدها و اسامی علمی برای آنها اختراع کردند به عبارت دیگر، یک بیماری اصلی را صدها بیماری تصور می کنند. شیش دارو یعنی سم و سم در هیچ شرایطی نمی تواند کار مفیدی انجام دهد. کار سم فقط مسموم کردن است. سم اصاب مردم را خورد و بیهس کرده و مقاومت سلول های بدن را در مقابل میکروب ها از بین می برد و اکسالامل شفابخش بدن را قطع می کند، هیچ بیماری با دارو معالجه نشده است و هیچ انسانی با دارو به سلامتی حقیقی نرسیده است معالجه با دارو یک نوع جادوگری مدرن علمی است که توسط پزشکان اجرا می شود در دنیای امروز کمبود مواد غذایی وجود ندارد بلکه ازدیاد مواد غذایی وجود دارد پزشکان دائما از رادیو تلویزیون و در مطبوعات از کمبود مواد غذایی صحبت می کنند و مردم را می ترسانند. من تعجب میکنم که چطور بین میلیون ها نفر دکتر دانشمند و زیستشناس حتی یک نفرم پیدا نشده که رسما اعلام کنه که مردم پختخار غذای طبیعی را با آتش نابود میکنند من این حقیقت را سالها پیش در کتابم نوشتم و گفتم چرا موقعی که در تلویزیون از کمبود مواد غذایی یا از کمبود پروتئین صحبت میکنند اضافه نمیکنند که یک نفر هم در تهران وجود دارد که کاملا مخالف این عقیده است من علم طب را با قطعیت و جسارت هرچه تمامتر محکوم می کنم و باعث همه بیماری ها اعلام می کنم. من هرچه می گویم این حقیقت است. من علاج همه بیماری ها را پیدا کردم و با هزارها مورد آن را ثابت کردم. در مقابل همه دستگاه های پیچیده آزمایشگاهی، برنامه های دانشگاهی و میلیون ها کتاب علمی، فقط یک دستور یک کلمه مواد پخت و حیوانی نخور، همه بیماری‌ها و سایر بدبختی‌های انسان را یک مرتبه ناپدید می‌کند و این دستور طبیعت و قانون ابدی آن است هر کس این قانون را بشکند جان خود را از دست می‌دهد این یک دستور کوتاه این دنیا را از جهنم به بهشت تبدیل خواهد کرد هر گونه دزدی دروغگویی، کشی و جنگ برای این است که هر بیشتر مرغ ماهی ویسکی و شامپاین بخورند اگر مردم بدانند که با یک گندم و خورما میتوانند بدنهای خود را کاملا سیر کنند، دیگر این کارها لازم نیست. من اکنون به کمک طبیعت یک اسلحه در دست گرفتم و میخواهم با میلیونها پزشک و با میلیونها پختخار پرخور و معتاد مبارزه کنم. این اسلحه دستور و امر طبیعت است، این اسلحه خیلی قوی قاطع و کامل است ولی نادانی مردم پختخار جلوی من یک دیوار سیاه کشیده است که عبور کردن از این دیوار کار آسانی نیست. ما می بینیم که علم پزشکی زیر نقاب بشردوستی یک تجارت وحشتناک برپا کرده است. اگر پزشکان قبول کنند که پخت و پز کار غلطی است و آن را رسما تایید کنند و یا تغذیه بیمارستان ها را عوض کنند، طولی نمیکشد که کلیه بیمارستان مطبها و داروخانه ها تطیل می شوند ولی آنها دوکانی باز کردند و بدیهی است که هر دوکانداری آرزو دارد که مشتری بیشتری داشته باشد. آنها تجارت خود را قانونی کردند و دولتها پشتیبان آنها هستند. آنها اگر سالها پیش این حرف های مرا که در کتاب خامخاری نوشته بودم قبول میکردند، بیشتر اشخاصی که در سالهای اخیر فوت کردند اکنون زنده بودند. در ردیف آنها دکتر اقبال رئیس نظام پزشکی است که مرا به دادگاه سپر تا تنبیه کنند اما خودش تنبیه شد و از دنیا رفت خوشبختانه دادگاه شکایت نظام پزشکی را بیاساس آن را رد کرد و به نفع من حکم صادر کرد ولی پزشکان از من دست نکشیدند آنها از راه دیگری سعی, کر... سعی میکنند فلسفه من را از بین ببرند برای این منظور آنها در جمعیت ما یک نفر را به نام آقای جواد رمضانی پیدا کردند که به کمک آنها شتافت است و به عوض یک پزشک، سه پزشک زیر نقاب خامخار وارد جمعیت ما کردند من راجع به جریان این جمعیت و باشگاه زیاد تکیه می کنم زیرا مجبورم ثابت کنم که چطور شش سال تمام وقت خود را تلف کردم از فعالیت جهانی بازماندم زحمت کشیدم و پول خرج کردم ولی تمام این زحمات به هدر رفتن چون چند نفر متقلب جمعیت و باشگاه و رستوران را با کلیه اموال و اساسیه آن از دست من و از اعضای حقیقی جمعیت درآوردند و به دست مخالفین سپردند آقای جواد رمضانی یک تاجر ثروتمند پولپرست ظالم و فعال شاید انسان بدی نباشد و نیت بدی نداشته باشد ولی چون نتوانست محنی امیغ فلسفه خیلی ساده و عالی خامخاری را درک نماید برخلاف عقیده من خیال میکرد که توسط علم زودتر به مقصد میرسد ایشان به عقیده خود به قدری ایمان داشت و به زرنگی خود چنان مطمئن بود که تصمیم گرفت کاری کند که مرا را از باشگاه پرکنار کرده و خود را به جای من و فلسفه علمی خود را به جای قانون طبیعت بگذارد کتاب بخور و خوشکل دکتر مجدی را به جای کتاب خامخاری بگذارد و به کمک پزشکان باشگاه را به تصرف خود در بیاورد برای رسیدن به این هدف خطرناک مجبور شد سطحان و تخلفات، قانون شکنی، دروغ پردازی، تهدید زورگویی سحنسازی و غیره پشت سر هم به کار ببرد. اول سعی کرد مهندس محمد رضا محتابی و مهندس منوچهر صفارزاده دو هیات مدیره را از خود دور سازد. آقای محتابی یک جوان 28 ساله، مهندس کشاورزی که از بیماری سخت کلیه با خامخاری نجات پیدا کرده بود، چند ماه به تعمیر باشگاه کمک کرد او جوانی با استعداد بود که تمام سیمکشی، لولکشی، نقاشی و نجاری باشگاه را به کمک آقای سفارزاده افتخارن انجام داد سپس شش ماه تمام باشگاه و رستوران را اداره کرد در تهیه سالات خام مطالعه کرد و کتابی تحت عنوان غذاهای خامگیاهی یگان غذای انسان نوشت آقای محتابی می‌خواست شرکت کشاورزی برای جمعیت تأسیس کند ولی طرحش ناتمام تمام مانزی را زمین پیدا نشد. آقای محتابی ثروتی نداشت و اگر ما حقوق ناچیزی برای اداره باشگاه به او میدادیم و وی را نگه می‌داشتیم باشگاه ما به این وضع اسفناک دوچار نمیشد ولی آقای رمضانی به قدری او را اذیت کردند که از ما فرار کرد و به دوستانش گفت من میروم پخته می‌خورم و می‌میرم و همین کار را هم کرد. به خورم شهر رفت در یک بانک کشاورزی استخدام شد از خانه و دوستان و جمعیت دور شد تنها ماند پخت خاری کرد و در نتیجه بیماری کل... کلیوی او دوباره ظاهر شد و او را کشت آقای منوچهر صفارزاده برای باشگاه خیلی زحمت ها کشید و کمک ها کرد ولی چون بهتر از همه فلسفه امید و خامخاری را درک کرده بود و همیشه از اون دفاع می کرد این بود که آقای رمضانی به او به چشم یک دشمن نگاه میکرد. به این تاریخیت مدیر پراکنده شد. آقای صفارزاده به شیراز و آقای عبولفضل صدارت به جهرم رفتند. ماندند آقای رمضانی و آقای کیهانی. آقای عبولفضل کیهانی شخصیت مهمی نیست. او از بستگان آقای رمضانی و یار وفادار اوست. من در این حوالی سه چار بار به خارج مسافرت کردم. خامخاران در همه جای دنیا از من دعوت می کنند، میخواهند مرا ببینند و من گاهی به دیدن آنها می روم. در این مواقع آقای رمضانی میدان را خالی دیده و دیکتاتوری خود را به جریان می انداخت ما اساسنامهی داریم که از طرف حقوقدانان با تجربه تنظیم شده که همه چیز را پیشبینی کردند و اختیارات مرا چنان محکم کردهاند که جلوی این قبیل تخلفات گرفته شود ولی آقای رمضانی قانون نمی شناسد. برای او میل او قانون است. اعلامیه اساسنامه ما میگوید ما امضا کنندگان تحت عنوان هیئت معسسان که در سایه مجاهدت دانشمند بزرگ جناب آقای آرشاویردر در آوانسیان مبتکر و بنیانگذار انجامن خامخاری که نظرات ایشان به طور واضح در کتاب خامخاری توجیه و تفسیر شده گرد هم اومدیم جمعیت مرکزی خامخارانو در تهران تشکیل داده آقای آرشا ویردر آوانسیان را به سمت دویر دائمی جمعیت انتخاب کرده و اساسنامه جمعیت را در 35 ماده و یک تبسره تصویب می نماییم راجب شرایط عضویت ماده 28 تبسره یک میگوید اولین شرط عضو شدن مطالعه امیق کتاب خامخاری و آشنایی کامل با قوانین آن قبول مکتب و فلسفه خامخاری است که در کتاب خامخاری مندرج شده است ولی آقای رمضانی و شرکا حتی کتاب خامخاری را مطالعه نکرده و فلسفه امیق آن را درک نکردند آنها کتابهایی مانند بخور و یا بخور و نیرومن شو. تعلیف آقای دکتر مجدی و کتاب تغذیه سالم تعلیف آقای دکتر نواب را به مردم سفارش می کنند که فقط چند کلمه از کتاب خامخاری من را برداشت کردند و باقی مطالب پوچ و بیارزش به صلاح علمی را که من علنا محکوم کردم از کتاب خارجی جمع کرده و این کتاب را نوشتند تا مردم سادلو را سرگم کنند. از رای صحیح منحرف سازند و سود ببرند ماده نوح اساسنامه می گوید همه تشکیلات جمعیت تحت رهبری و ریاست دبیر دائمی آقای آرشاویر رآوانسیان مبتکر و بنیانگذار مکتب اداره خواهد شد ولی آقای رمضانی برخلاف اساسنامه همه تشکیلات جمعیت را به دست گرفته و می کند طبق ماده 17 اساسنامه، هیئت مدیر جمعیت, م... جمعیت مراکب از پنج نفر می باشد که برای یک سال انتخاب می شوند. دو نفر از آن توست... از طرف دبیر دائمی جمعیت تعین و منصوب می شود و سه نفر دیگر از طرف مجمع عمومی به اکثریت آرا از بین اعضای جمعیت انتخاب و افتخارا انجام وظیفه خواهند نمود. ماده 21 می گوید چنان چه هر یک از سه نفر از اعضای انتخابی هیئت مدیره از خط مشک جمعیت منحرف شود تا تشکیل مجمع عمومی از شرکت در جلسات هیات مدیره محروم خواهد شد. آقای رمزانی یکی از این سه نفر اعضای انتخابی حیط مدیره بوده است؟ ماده 29 اضافه میکند در صورتی که هر یک از اعضا سه ماه متوالی بدون عضر موجه در جلسات حضور نرساند ازبیت و یا حق عضویت نپردازد و یا برخلاف اساسنامه و ضوابط جمعیت رفتار نماید از عضویت از اخراج خواهد شد قبول مجدد اعضای برکنار شده و تصویب با دبیر دائمی جمعیت امکان پذیر است پس طبق مواد 18، 21 و 29 آقای رمضانی و آقای کیهانی قانوناً از عضویت در جمعیت اخراج بودند و هر حرکتی که آنها بر علیه من انجام دادند غیرقانونی و زورگویی بوده است. من اگر میخواستم به موقع میتوانستم از اختیارات خود استفاده کرده آنها را برکنار کنم و اداره جمعیت را به دست بگیرم ولی هر قدرم که عجیب به نظر می‌آید من با آقای رمضانی برای روحیه فعال و پرتحرکش علاقه خاصی داشتم. مخصوصا که او برای جمعیت فعالیت و کمک می‌کرد. ایشان در باقی خود سمینار تشکیل داده بود. من نمی‌خواستم او را برنجانم. من همیشه منتظر بودم که او اشتباه خود را قبول کرده و به گفته خود که شاید یک روز عقل من به عقل آوانسیان برسد، به طرف ما برگردد. حالا ملتفت می‌شوم شاید با این حرفا مرا مسخره کرده است و خودش را عاقل و مرا بی حساب می‌کرده. چرا که خودش علم پزشکی را قبول دارد ولی من ندارم؟ او به عقیده خود چنان ایمان داشت که برای پیشبرد هدف خود همانو تخلفات، قانون شکنی، تهدید، زورگویی و دروغ پردازی به کار انداخت. او می گفت برای مبارزه آدم باید از همه گونه وسایل و طرحی استفاده کند. در ماده 32 اساسنامه می خوانیم برای تمرکز درآمدهای حاصله، دبیر دائمی و خزانهدار جمعیت در یکی از بانکها حساب جاری افتتاح خواهد نمود و اختیار برداشت با دو امضای نامبردگان انجام خواهد گرفت آقای رمضانی یکی از دوستان و همکلاسان خود را به نام آقای مستعان دفتردار کرده که هر پولی که از فروش رستوران، دفتر و عضویت فصول می شود به بانک می برد و به حساب شخصی آقای رمضانی می آقای رمضانی این پولها را چه کار و به چه مصارفی می رساند هیچ کس خبر ندارد و به هیچ کس حساب پس نمی دهد. ماده ی هفته اساسنامه میگوید جمعیت خامخواران هیچ گونه دخالتی در علم تب نمی کند. هیچ نوع معاینه و آز... آزمایش از افراد به عمل نمی آورد و برنامه های غذای مختلف برای بیماری های به خصوص تعین نمی کند. زیرا, حقیقی... زیرا خامخار حقیقی هیچ وقت مریض نمی شود و نیاز به تبابت و اقدامات پزشکی ندارد ولی آقای رمزانی مهری ساخته بود. روزهای یک شنبه و سه شنبه از ساعت 4 تا هشت و پنج شنبه ها از ساعت یک تا سه سخنرانی و بیماران به وسیله پزشکان و متخصصین تغذیه به رایگان معال... معاینه می‌شدند این مهر را روی هایی که من با خرج خود چاپ کرده بودم میزد چون آقای رمضانی برای تبلیغ پولی خرج نمی کند نظام پزشکی از من شکایت کرده بود که من به کارهای پزشکی دخالت می کنم اکنون آقای رمضانی این کار را میکند. مدتی در باشگاه طب سوزنی را راه انداختند زن و بچه و پیر و جوان کنار دیوار با سوزنهای فرو رفته در گوش، بینی، لب، پیشانی دست و زانو مثل مجسمه ساکت نشسته منتظر بودند که بیماری از نوک سوزن بیرون بپرد و آنها را نجات دهد ناتانی مردم پختخارچ چه خند خندآوری که به وجود نمی‌آورد. دکتر نواب از بلنگوی باشگاه سخنرانی کرده و اعلام میکند که با عقیده آوانستیان موافق نیست. خیلی خوب آقای نواب اگر با فلسفه آوانستیان موافق نیستید در این باشگاه چه کار میکنید؟ در دنیا میلیونها پخته‌کار هستند که با فلسفه آوانستیان مخالفند مگر همه آنها حق دارند که وارد باشگاه ما بشوند و بر ضد سخن بگویند وقتی من راجع به این جریانات برای اطلاع اعضا اعلامیه صادر کردم این کار خشم آقای رمزانی را برانگیخت. او قفل درب حیات را که خودم بیل زده و آن را گل کردم عوض کرد که من برای آبیاری باغچه نتوانم وارد حیات شوم. در به دفتر من را قفل کرد و من مجبور شدم از راهرو در به جدیدی به دفترم باز کنم. در به ورودی باشگاه از راهرو نیز از پشت قفل است. نوبت به انتخاب هیئت مدیره جدید رسید. آقای رمضانی از چند نفر جوان خواهش کرد که ها را تهیه کنند. دعوت‌نامه ها نوشته شد و در پاکت گذاشته شد. آقای رمضانی این پاکت ها را برای تمر زدن و پست کردن به خانه خود برد ولی حتی یکی از آنها پست نشد. به طوری که هیچ کدام از اعضای جمعیت از انتخابات هیئت مدیره جدید خبر نداشت. در این روزها آقای رمزانی کلیه کارتکس های ازار را جمع کرده و به خانه خود برده, برده بود. به آقای مستعان دستور داده بود که هیچ کس را به عضویت قبول نکند. این کار یک جرم بزرگ است. یک نفر از آقای رمزانی پرسید که فلان آقا میخواست عضو بشه. چرا قبول نکردید و ایشان جواب داد از قیافش خوشم نمی آمد. هیچ دیکتاتوری در دنیا حاضر نمی شود چنان جواب ای بدهد. آقای رمزانی در منزل خود دوست، آشنا، همسایه، فامیل و سایر افراد پختخار را وارد جمع کرد و به هر کدام یک کارت عضویت داد تا روز انتخابات وارد باشکاشن و به اون رای بدن. روز انتخابات, روز انتخابات مایند شده آقای رمزانی با گروه خامخاران غلابی وارد باشگاه می شود و متن یک اساسنامه جدید با نام جدید با مرکز جدید و با فلسفه جدید را که در خانه خود فقط با یک رأی مخفی با رعی مخفی آقای رمضانی تصویب شده بود قرائت میکرد گروهی از پزشکان و سایرین را که باز هم خودش با یک رعی مخفی انتخاب کرده بود معرفی میکند و میگوید هر کس که موافق است دست بلند کند چند نفر از مزدوران آن با تعجب دست بلند میکنند و آقای رمزانی اعلام میکند تصویب شد چند نفر از اعضای قدیمی که برای غذا خوردن وارد باشگاه شده بودند اعتراض کردند من از خانه خود وارد باشگاه شدم و اعلام کردم که آقای رمضانی از خیلی وقت پیش از عضویت جمعیت محروم است به طوری که نه رأی دادن دارد و نه انتخاب کردن و انتخاب شدن این انتخابات غیرقانونی و قلابی است آقای رمضانی این, این انتخاب را به سبت رسان و ما اعتراض نکردیم چون این جمعیت جدید به جمعیت ما مربوط نیست این جمعیتی است با نام جدید هدف جدید محل جدید اساسنامه جدید با کتابای جدید با بنیانگذار و دبیر جدید و م... مؤسسین جدید هرکس آزاد است یک هدف برای خود انتخاب کند چند نفر از همفکرانش را دور خود جمع ت... جمعیت تشکیل دهد و به ثبت برساند ولی در تاریخ دیده نشده که یک گروه غیرقانونی وارد جمعیت مخالفین خود بشود در آنجا برای خود یک انتخابات قلابی تشکیل دهد مؤسسین اصلی جمعیت را برکنار سازد و تمام دارایی جمعیت اصلی را به تصرف خود درآورد این کار شبیه به این است که دشمن شهری را محاصره کند چند نفر از ساکنین شهر, شهر دروازه را باز کنند و شهر را به دشمن بسپارند جمعیت خامخاران با فعالیت غلط پزشکان مخالفه ماده 17 اساسنامه میگوید خامخار حقیقی هیچ وقت مریض نمی شود و نیازی به طبابت و اقدامات پزشکی ندارد راجع به تصادفات ما جراحان خامخار میسازیم که بدون آنتی بیوتیک بدون سرم و بدون پروتئین حیوانی عمل خواهند کرد به من میگویند با این پزشکان که خامخار هستم و راجع به خامخاری صحبت میکنند چرا مخالفی؟ این درست نیست. دکتر مجدی به مردم میگوید گاهی پخته هم بخورید اشکال ندارد و خودش هم میخورد. دکتر نواب عقیده دارد که خامخاری را باید تدریجن شروع کرد. از قیافه یک دکتر رشتی یکی از اعضای هیات مدیره جدید میشود فهمید که او خامخار نیست، این پزشکان باشگاه خامخاران را مرکز تبلیغ قرار دادند و برای مطب خود مشتری جمع می کنند تا شهرتی پیدا کنند. دکتر نواب رئیس هیات مدیره شده. ریاست او از چه قرار است؟ فقط اینکه هفته یک ساعت راجب پروتئین و ویتامین صحبت کند و بس. رئیس باید ریاست کند و به کاره باشگاه برسد. من تعجب می کنم که دکتر مجدی، دکتر نواب، دکتر رشدی و سایر اعضای هیئت مدیره که آقای رمضانی انتخاب کرده، هر مخالف فلسفه من باشند، چطور آنها قبول کردند که در این انتخابات غلابی با این صحنه‌سازی شرمآور شرکت کنند و بنیانگذار و دبیر دائمی جمعیت آوانسیان را برکنار کنند. آقای رمضانی را به جای آوانسیان دبیر قرار بدهند. باشگاهی را که آوانسیان به وجود آورده و شیش سال تمام اونو اداره کرده از دستش بیرون بیارن و با تمام وسایل و موجودات باشگاه به زور تصرف کنند. آنها اینقدر باید بدانند که انجامن خامخاران بدون آوانسیان و بدون کتاب خامخاری نمیتواند وجود داشته باشد. باید اضافه کنم که اساسنامه جمعیت خامخاران به قوت خود باقی است و این حق آقای رمضانی نیست که در خانه‌اش این اساسنامه را تغییر بدهد و اختیارات بنیانگذار و دبیر دائمی جمعیت را حتی یک ذره تغییر دهد اعضای واقعی جمعیت خامخاران اگر غیرت داشته باشند توانند رمضانی را با مزدوران و با اعضای غلابی او به جای خود بنشانند اولین هدف جمعیت خامخاران این است که پزشکان را وادار سازیم بیمارستان ها را خاموش کنند و بیماران را با غذای طبیعی نجات دهند اگر دکتر نواب، دکتر مجدی و دکتر رشدی بتوانند به این هدف برسند آنها دوستان ما و دوستان بشریت تلقی خواهند شد در این صورت من مطمئن می شوم که جمعیت به دست اشخاص لایق و قابل اعتماد افتاده است و خود نیز به کارهای جهانی هم در غیر این صورت خواهش من این است که باشگاه را به صاحبان اصلی خود برگردانند و دیگر در کارهای باشگاه دخالت نکنند. جمعیت ما احتیاج به سخنرانی به اصطلاح علمی ندارد. ما وقتی دستور طبیعت را قبول داریم که پخته نخورید، حیوانی نخورید، غذای خام گیاهی را هر کدام که دوست دارید بخورید، احتیاج به شنیدن حرفهای دیگر نداریم. آقای رمزانی خود را عالم تصور و. وخ... اه... وقتی خامخواران دور من را می‌گیرند و سوالاتی می‌کنند، آقای رمضانی وارد صحبت می‌شود و از گلوکوز و گلوکوژن صحبت می‌کند. روزی موقع مشاجره آقای کیهانی شروع به فحاشی به من کرد. او دستش را بلند کرد و پشت سر هم پنج بار فریاد زد ارمنی ارمنی ارمنی مثل اینکه ارمنی نوعی فوش است. من افتخار میکنم که ارمنستانی هستم و افتخار میکنم که آریایی هستم. ملت ارمنستانی هیچ وقت از هموطنان ایرانی بدرفتاری ندیده و همیشه از احترام آنان برخوردار بودند. بین ملت‌ها اختلاف انداختن از بدترین کارهاست. این حرکت فقط برای اشخاصی مانند ابوالفضل کیهانی نوکر حلقه به گوش رمضانی است. آقای رمضانی برای اینکه مرا اذیت کند، پنج شش است که کرایه مرا نپرداخته است. یک روز او مثل دیوانه ها وارد باشگاه شد و وقتی دید که من با چند نفر راجب خامخاری صحبت می کنم، فریاد کشید: "از اینجا برو بیرون." بعد به کاریگری که تازه استخدام کرده بود دستور داد: "این را بیانداز بیرون." این کارگر نیز مرا را داد و از پله های درب ورودی بیرون انداخت و من قلت زنان به زمین افتادم و سرم به یک موتور گرد و زخمی شد. اگر خامخار نبودم حتما سکته مغزی کرده بودم. رفتیم کلانتری و از آنجا به پزشکی قانونی. این کارگر میخواست خود را تبرئه کند و با صدای بلند تکرار میکرد که این آقا میگوید اگر دست به میز بزنید لاغر میشوید. این از خامخواری همین قدیار گرفته بود. آقای رمضانی نیز کاغذای را میخواست به بازپرس نشان, ب... نشان بدهد که بازپرس آنها را عقب زد. حتما آقای رمضانی میخواست اساسنامه معروف خود را نشان بدهد و ثابت کند که خودش دبیر جمعیت است و من مزاحم. اینجا چه کار میتوانستم بکنم؟ گذشت کردم و بیرون آمدم. این هم آخرین صحنه کمدی یا تراژدی بود. نمیدانم. از آقای رمضانی باید پرسید. او بارها مرا را تحدید کرد که کاری می کند من مجبور شوم لخت از ایران فرار کنم. شاید رسم او این طور باشد چون جان خود را به فلسفه من مدیون است. این هم یک نوع سپاسگزاری است. وقتی از ایشان می پرسند پس آوانسیان کجاست جواب می دهد او علمی نیست. همینجا من اعلام می کنم که هر صدمهی به جان و مال من برسد از اوست. اکنون که من به باشگاه نمی مردم معالجه شده برای سپاسگزاری و برای کسب اطلاعات و خرید کتاب به منزل ما در طبقه دوم می آیند. ما یک جمعیت تشکیل دادیم با فلسفه ای که در کتاب خامخاری نوشته شده کسی که این کتاب را قبول ندارد نمی تواند عضو این جمعیت بشود راجب اصلاحات اساسنامه هم که نوشته شده مربوط به جزئیات اساسنامه و طرز اداره کردن باشگاه است نه این که فلسفه اساسی جمعیت را از میان بردارند و فلسفه کاملا مخالف آن را بیاورند و در جمعیت ما پیاده کنند ما فرمول ها و برداشت آزمایشگاهی راجب ترکیبات غذایی و خاصیت های مختلف گیاهان را قبول نداریم پزشکانی که می‌خواهند عضو جمعیت خامخاران شوند باید های خود را تعطیل کنند و برای بیماران نسخه ننوشه و سم تجویز نکنند اما آنها بالاخره پزشک هستند و نمیتوانند از دانش غلط خود به کلی دست بکشند و اگر این کار را بکنند دیگر کاری ندارند که انجام دهند و حرفی ندارند که بزنند آنها در باشگاه ما در مورد ویتامین پروتئین و های گیاهان سخنرانی میکنند. این حرفها فقط چرند، افسانهای خیال بافی و ساختگی هستند اوایل هفت، هفته ای سه دفعه سخنرانی رانی می بعد شد هفته ای یه روز و فقط یه ساعت به زودی مردم از شنیدن این حرفها خسته میشن و حرف های اونا اونام تموم میشه. بعد می چی کار کنن چقدر می مردم و گول بزنن بادام زمینی را حتما با کنجد بخورید نیم کیلو از آن 300 گرم از این و 200 گرم از آن یکی قاطی کنید و بخورید که کامل شود اگر آنها بخواهند این قبیل لسورها را به مردم بدهند هزاران نو گیاه وجود دارد که می توانند هزاران و برنامه دروغکی بسازند و می سازند آقایان پزشکان شما که آمدید باشگاه ما و در آنجا از پروتین صحبت می کنید اگه واقعا می‌خواید به مردم این دنیا کمک کنید، بروید در رسانه های جمعی به مردم بگویید که پخت و پز عملی است غلط و خطرناک که توسط مردم نادان به وجود آمده و با مردم متمدن تکامل پیدا کرده و دنیا را به جهنم تبدیل نموده است. این کشتار که تمام دنیا را فرا گرفته، بگویید که اقلن یک دفعه هم که شده اشاره کنند که پختن کاری است، بحیر طبیعی و غلط یک دفعه اشاره کنن که در دنیا کمبود مواد غذایی وجود نداره بلکه ازدیاد مواد غذایی وجود داره آقایان دکتر نواب، دکتر مجدی و دکتر رشدی شما که آمدید باشگاه جمعیت خامخاران را غیرقانونی اشغال کردید اگه واقعا نیت شما انسانیه پول جمع کنید، آنها جمع کنید، از دولت کمک بگیرید. بروید آفریقا و هندوستان و روزانه با یک مشکندوم زنده و چند عدد خورما، این گرسنگان را سیر کنید و نجاتشان بدهید. اکنون مردم به این بچه ها طبق دستور پزشکان گوشت گوشت میخورانند به خیال اینکه اینها از کمبود اسید آمینه های گندیده و زهرالود حیوانی گرسنگی کشیدند. با این کار ابلهانه به گرسنگی بچه ها مسمومیت نیز اضافه می کنند که زودتر بمیرند. هدف ما این بود که اعضای وفادار و فهمیده را جمع کنیم. جلسه های هفتگی یا حداقل ماهانه تشکیل بدهیم. برای فعالیت و تبلیغات کمیته‌هایی بسازیم. مجله منتشر کنیم و به سوی هدف خود سری پیش برویم. آقای جواد رمضانی فهمیده که جمعیت خامخاران آتیه ی درخشانی دارد. ولی نه مثل من. من آرزو دارم اعضای جمعیت زیاد شوند. مجله چاپ کنیم درآمد زیاد داشته باشیم برای پذیرای مهمانان پانسیون هایی درست کنیم تا کسانی که اراده قوی ندارند آنجا بخورند و بخوابند و به سلامتی برسند بعد غذاها و شیرینی های خام درست کنیم و مانند ماستوکره بندی کرده در شهر پخش کنیم من می اینها با پول های جمعیت تهیه شوند تا جمعیت ما ثروتمند شده و زودتر پیشرفت کند ولی رمضانی خیال دیگری دارد او می خواهد سرمایه گذاری کند برای غذا کارخانه بخرد با کمک پزشکان کلینیک باز کند و برای خود بازار باز کند او کتاب او بخور و خوشگلشو را منتشر کرده که 20 ریال تمام شده و 100 ریال می فروشد. 20 ریال به باشگاه می دهد و 60 ریال هم خودش بر می دارد چاپ کتاب خود را به من واگذار کرده است من آن را 22 ریال تمام کردم و 22 ریالم با باشگاه حساب کردم باشگاه آن را 100 ریال می فروشد و 78 ریال از هر کتاب سود می برد رمزانی کارتکس های را به خانه خود برده و نمی خواهد برگرداند این یک جرم بزرگ است وقتی مردم از او میپرسند اشخاصی هستند که میخواهند عضو بشوند و حق عضویت بپردازند چرا کارتکس ها را به باشگاه نمیآورید؟ او جواب می دهد ما عضو نمیخواهیم. آیا رمزانی خبر دارد که بدون عضو در دنیا جمعیت وجود ندارد و نمیتواند وجود داشته باشد؟ باشگاهی را که با ورودی حق عضویت و هدیه های هزار نفر، اوزو و با زحمت‌های شش ساله آوانسیان تشکیل یافته است، رمزانی تجارتخانه خود تصور می‌کند. این آقا خیلی استعداد و جرأت دارد که آشکارا در جله چشم مردم دنیا مال هزار نفر را ربوده و به تصرف خود درآورده است. او اعضای قدیمی را قبول ندارد، عضو جدید هم نمی‌خواهد. با بنیادگزارش هم دعوا کرده و او را از باشگاه بیرون می‌اندازد. همه اینها به خاطر این به علم پزشکی پوسیده و شرم است اگر همه این زرنگی ها را برای یک هدف صحیح عالی و انسانی به کار انداخته بود شد قابل تحسین بود ولی اکنون به بزرگترین دشمنان بشریت خدمت میکند در هر صورت جاه طلبی او به نتیجه رسید او میخواست معروف شود معروف شد اسم او در تاریخ ثبت کردید ولی او باید خوب بداند که در دنیا هیچکس نمیتواند حق بنیانگذاری جمعیت خامخاری را از من بگیرد همینطور هم آقای جواد رمزانی نمیتواند در جمعیت خامخاران جای مرا بگیرد من تا زنده هستم دبیر دائمی جمعیت هستم این از قانون دنیا رمزانی فقط خودش را رسفا میکند مردم مرا می میشناسند و از همه جای دنیا به سراغ من میاید از همه اینها گذشته اگر روزی رمزانی مطالعات خود را امیختر کند، اشتباط خود را قبول کند، از به صلاح علم پزشکی دست بردارد، به طرف طبیعت برگردد و طابق قانون طبیعت بشود، ما با آبوش باز او را میپذیریم و من زحمت هایی که او در حقم می کرده را نادیده میگیرم. در اخلاق خامخاران حقیقی کینجوی جایی ندارد، ما اهل گذشت هستیم. چند نامه و بیوگرافی از بیماران معالجه شده وقتی که من هزارها دفعه میگویم و می نویسم که خامخاری علاج واقعی همه بیماری هاست که بیشتر مردم با عقل دیگران فکر میکنند و 99 درصد مردم پختخار این طور هستند میگویند که با وجود این علم پزشکی عظیم میلیون‌ها دانشمند با هنگفتی وسایل و دستگاه‌های پیچیده ناتوانسان کاری بکنند آن وقت یک آدمی که پزشک کم نیست چطور می‌تواند علاج همه بیماری‌ها را پیدا کند این کار شدنی نیست آنها فکر نمی‌کنند که قانون طبیعت بالاتر از همه علوم روی زمین قرار دارد مخصوصاً پزشکان می‌گویند لازم است هزاران بیمار را قبل از خامخاری زیر همه نوع معاینات و آزمایشات قرار داد و بعد از یک مدت خامخاری نتیجه را مقایسه کرد. خب، ما یه هواپیما ساختیم که در هوا پرواز می کند پزشکان این را تصدیق نمی کند. آنها میخواهند در طول ماهها پرواز هواپیما را نگاه کنند و بعد قبول کنند که به راستی هواپیما پرواز می کند. من اینجا چند نامه و بیوگرافی از بیماران داخل کشور میآورم که ثابت می کند کسانی که و سالها در دست پزشکان رنج می و روز به روز حالشان بدتر میشد، با خواندن کتاب خامخاری و عمل کردن به دستورات آن در مدت خیلی کوتاهی معالجه شدند. شاید پزشکان بگویند که این نامه‌ها ساختگی هستند و یا صاحب نامه خودش نمی‌داند که معالجه شده. باید پزشک معاینه کند، آزمایشات به عمل بیاورد و بعد تصدیق کند که شخص واقعا سالم است. در این مدت، در این مدت 20 سال که به انتشار کتاب پرداختم، صدها هزار نامه مشابه از همه ممالک دنیا به من رسیده است که خیال دارم از آنها کتابی بزرگ بسازم تا شاید پختخار و تا شاید مردم پختخار و پرخور بیدار شده و به هوش بیایند. نامه اول از شیرین گیف در فامیل ما میگرن ارسی است و من هم گرفتار آن بودم. وقتی به طبیب مراجعه می میگفتند چاره ندارد. سالها مسکنهای گوناگون بود که کمی درد را ساکت می که آن هم بعد از مدتی در اثر مصرف زیاد دیگر اثری نداشت. علاوه بر می درد شدیدی در ستون فقرات ناحیه گردن داشتم. شدت درد به قدری بود که نمی سرم را تکان دهم. همچنین در زانوهایم که بعدا با عکسبرداری معلوم شد که روز است و دکترها گفتن باید مدارا کنی با کمی فیزیوتراپی و کشش بهتر می شود و چاره ندارد در اثر خوردن دواهی زیاد و تزریقات گوناگون که شاید درد را تخفیف بدهد علاوه بر اینکه درد خوب نشد به مرض قندم گرفتار شدم وقتی در ایران نتوانستم کاری بکنم به اسرائیل و بعد به لندن رفتم اولین چیزی که باعث حیرت دکترها شد مسمومیت ما ایرانی ها از مصرف بیش از حد دارو بود این بود که بلافاصله دواها و ها را قطع کردند و با سبزی میوه‌جات مایعات سالم و آب گوارا درمان را شروع کردند. به من روزی دو لیتر آب خوردن و مقداری سبوس گندم تجویز کردند. البته خیلی بهتر شدم ولی تمام پزشکا دستور دادند که باید این... که باید با این مرض مدارا کنید چون ریشهکن نخواهد شد. وقتی به کشور برگشتم کتاب خامخاری به دستم رسید و به قدری در من اثر کرد و جالب بود که یک روزان را خواندم و فردای همان روز خامخاری 100 درصد را شروع کردم البته با علم به اینکه از واکنش ها نترسم ایمان و امید داشتم و حالا که یک سال و چهار ماه از آن تاریخ می گذرد، خود را روز به روز شادتر و سالمتر احساس می کنم از درد پا و گردن خبری نیست و میگرنهای هر روزه به ماهی یکبار رسیده آن هم خیلی خفیف از همه مهمتر اینکه که روش خامخواری تمع و جاه طلبی و حسادت را از شخص دور می کند و جای آن را محبت می گیرد. تا آخر عمر این روش درست و مطلوب را ادامه خواهم داد نامه بعدی جناب آقای ضمن عرض سلام و تشکر از راهنمایی و فداکاری شما در مورد خدمت به مردمان مریض که دست آنها از همه جا کوتاه شده و همیشه اوقات از درد رنج میبرند. اما در اثر رفتار به دستورات صحیح شما در مورد اجرای دستورات خامخاری که تنها غذا درست طبیعت است نجات پیدا می کنند. اینک من یکی از افراد این مملکت هستم که به علت بیماری دیسک کمر پنجمین مهره کمری که از سال 2524 مبتلا شده و در شغل افسری خدمت میکردم همیشه اوقات از درد رنج می بردم به خصوص چون فرمانده بودم و وضعیت نظام اجازه نمی دهد که فرمانده در مقابل زیردستان خود کجرا برود یا کمرش خمیده باشد رنج می بردم که خوب نمیتوانم بدوم قدم بکشم و راست بیستم. لذا به همین منوال چون ادامه خدمات، صفی برایم امکان نداشت خودم را بازنشسته نمودم در صورتی که من در ارتش شاهنشاهی بیش از 16 سال خدمت نکرده و سنم 38 سال بود لذا با ناامیدی در مورد رنج درد کمر و ناراحتی مده در یکی از روزهایی که به مشهد رفته بودم با یکی از خامخواران به نام غلام حسین باقری برخورد کردم و ایشان مرا به دستورات آقای آوانسیان راهنمایی نمودند اینک مدت هفت ماه است که کاملا خامخار شدم و ناراحتی های قبلی تماما مرتفر شده و از سایه که مشغول نوشتن این مطالب هستم از مشهد به باشگاه خامخاران آمدم که حضورا از ناجی بزرگ آوانسیان تشکر کنم این مرد خیراندیش که با دستورات صحیحشان کلیه مردمان مریض و مردمان سالم دیگر که اگر به دستورات خامخاری توجه ننمایند حتما روزی مریض خواهند شد از بیماری خود نجات پیدا خواهند کرد مجددا از شخص آوانسیان تشکر نموده و موفقیت ایشان را در پیشرفت این کار و خدمت بزرگ به مردمان تبریک میگویم با اظهار تشکر فراوان سروان بازنشسته علی اکبر حمیدیان نامه بعدی محمد حاشم فراشاهی از تهران جناب آقای آوانسیان با استفاده شایان قدری از کتاب خامخاری شما گذشته خود را با کمال اختصار به شرح زیر معروض می‌دارم به این امید که شاید این شرح حال بسیار مختصر برای تشویق هرچه بیشتر شما برای راه خامخاری که انتخاب کردید و هم برای کسانی که این نامه احیانا به نظرشان می‌رسد مفید واقع شود این از شرح حال گذشتم. قریب هفتاد سال از عمرم را در پختخاری یا به تعبیر رساتر در مردخاری صرف کردم و بیماری هایی را پشت سر گذاشتم. به یاد ندارم هیچ یک از بیماری به وسیله معالجاتی که آقایان برای رحاییم از آن مرزها انجام دادن معالجه شده باشد و اگر هم مرزی ظاهرن برای مدتی خودش را پنهان می کرد دلیلی نبود که معالجه شده. بلکه به علتی که من آن را شناخته بودم موقتا من را رها می ولی باز به سراغم می‌آمد. از همه ناراحت کنندهطر مرض غندم بود که حدود سی سال مرا مر رنج میداد و گذشته از این که پرهیز آن بسیار خسته کننده و آزاردهنده بود مرتب باعی به دکتر ماررج میکردم تا قنده خون و ادرار مر مرا آزمایش نماید و روزیشش عدد قرص زده دیابت بخورم و آمپول هایی بزنم. این وز ادامه داشت. تا اینکه به وسیله فرزندم سرهنگ فراشاهی کتاب خامخاری به دستم رسید و با استفاده از نیرویی که از استاد بزرگوارم گرفته بودم و باز به ارشاد و راهنمایی همان استاد بزرگوارم خامخاری را شروع کردم و از همان روزهای اول با اینکه مواد قندی مانند خرما کشمش و غیره مصرف میکردم هیچ گونه اثری از وجود مرض قند احساس نکردم بلکه عوارض دیگریم که آزارم میداد، مانند خفقان قلب و سرکیجه از من دور شد اکنون در وضعی هستم که کاملا سالمم و به هیچ وجه حاضر نیستم به جای اولیه برگردم و احمقان سلامت خود را فدای یک لغم غذای مرده کنم با احترامات شایسته محمد حاشم فراشاهی نامه بعدی قلام رزا گل متولد دو اداره امور اقتصادی و دارایی اکنون یک سال از روزی که در مسیر خوشبختی گام نهاده ام راهی که پس از نومیدی از ادامه زندگی برایم ام برای ام امید خوشحالی و شادی هم را خواهد. خلاصه زندگی تا اول مرداد ماه 2536 به شرح زیر بود. با وجودی که قوی بودم از اول سال 2533 به علت بیخوابی به دکتر اصاب مراجعه نموده و شروع به مصرف قرصای خواب خواباور و آرام بخش کردم پس از گذشت سه ماه مبتلا به تشنج عصبی و به دنبال آن تپش قلب شدم که در شبان روز بین 100 تا 120 در نوسان بود و دائم در حال استراب به سر می بردم سپس سرگیجه دائمی به سرغم آمد و سوز درد و سوز دردی در ناحیه شانه هایم احساس می کردم و احساس خستگی شدید و دائم داشتم و بر اثر مصرف زیاد دوا وزنم به, صد و هشت... وزنم به هشتاد و دو کیلو رسیده بود وضع عمومی به طوری بود که اگر با کسی حرف می زدم طوری متشنج می شدم که ادامه صحبت برام امکان پذیر نبود نمی توانستم یک صفحه کتاب مطالعه نمایم و اصطوخان های دست ها هم همیشه تا مغز آن درد می کرد و، پنجه های گاهی چنگ می شد و به حالت نیمه فلج در آمد از زندگی قطع امید کرده و همیشه فکر می کردم شدن در جوانی را چگونه تحمل خواهم کرد همیشه اوقاتم،, همیشه اوقاتم در مطب دکترها یا در آزمایشگاه ها وضع عمومیم روز به روز بدتر می شد همیشه تنها و افسرده به سر می بردم و منتظر یک حمله بودم که فلج شوم. توی که امید یعنی کتاب خامخاری توسط یکی از دوستانم به من رسید. ظرف 24 ساعت آن را مطالعه کرده و شروع به خامخاری نمودم. اول مرداد ماه 2536 در همان هفته اول سرگیجه، خستگی، درد دست و درد شانه برطرف شد. ولی ناراحتی‌های عصبی و تپش قلب به تدریج از ماه دهم ده به کلی برطرف شد. با برطرف شدن هر عکس خود را قویتر و شادابتر احساس می‌کردم. پونزده هیلو از وزنم کم شد امروز من خوشبختم و این شادی را مرهون زحمات استاد میدانم این خلاصه را فقط کسانی میتوانند دریابند که خود گرفتار بودند خوشبختی پس از ناامیدی و چه نعمتی بالاتر از بازیافتن سلامتی است اطرافیان مخالف اکنون بعد از گذشت یک سال قبول کردند که تنها را سلامتی در خامخاری است فقط برای استاد آرزو موفقیت را دارم استاد استاد کوهی به من بخشید کاش میتوانستم در عوض آن کاهی میدادم قلام رضا گل نامه بعدی به دبیر دائمی جمعیت خامخاران این جانب محمود متشرعی متولد سال 2503 به شمارش شناسنامه 688 صادره از عراق که شغلم مدیر داخلی چاپخانه نگین است به اطلاع میرسانم قبل از خامخاری دارای امراض زیل بودم ناراحتی اصاب آسم برونشیت مزمن ناراحتی کیسه صفرا چرکین بودن کلیه ها پوسیدگی لوزه که هر کدام از این امراض به نوبه خود بروز کرده و هیچ کدام از اتبا نتوانستند مرا معالجه نمایند فقط با دادن داروهای مسکن برای مدت کوتاهی مرا از شکنجه مرا از شکنجه کشیدن راحت می نمودن و از شانس خوش بنده به بیشتر داروهای مسکن حساسیت شدید داشتم و به خاطر همین موضوع به تریاک رویاورده و از زندگی خود با تمام این امراض بیزار بودم تا این مقاله ای که تا, تا این که مقاله ای راجب خامخاری در مجله دانشمند خوانده و به جمع خامخواران پیوستم در مجله دانشمند خوانده و به جمع خامخارم پیوستم و 20 روز بعد از خامخاری دیگر اثری از این امراض در من مشاهده نشد. تا اینکه که روز پیش که برای امتحان دوباره به مدت 3 روز پخت خاری کردم تمام امراضم عد کرد و برایم ثابت کردید که خامخاری داروی تمام امراض است و حتی از بروز امراض نیز پیشگیری می کند. بعد از سه روز پختخاری لوزه هایم چرکین و کیسه سفر هم پر شده بود و سه روز تب, و سه, و نیم درج... سه, روز تب سه و نیم درجه داشتم و اکنون هجر روز از این موضوع می گذارد. با کمی عکسالعمل دوباره سلامتی را رو به دست آوردم و این سلامتی و زندگی خوش را مدیون شما دانشمند عالی قدر عالم تغذیه میدانم و یک عمر رهین منت و... و این کشف بزرگ شما هستم آوانسیان عزیز از تو متشکرم تو در عالم تغذیه اجاز کردی و هیچ نیرویی نمیتواند مرا به پخت بکشاند نامه بعدی شرح حال منوچهر صفارزاده عضو شماره یازده جمعیت خامخاران تاریخ شهریور 2533 در کودکی لزه خود را از دست دادم آن را عمل کردند تقریبا از ده سالگی و روماتیسمی در پاهایم شروع شد که با قرص و آمپول کمی تسکین میافت. تا اینکه در 22 سالگی همراه با تب شدید و بستری شدن،, بستری شدن چند روزه تشخیص داده شد که به بیماری روماتیسم قلبی و نابسامانی دریچه های آورت و میترال دچار شدم. در زم تا حدود 25 سالگی نیز مرتب خوندماغ می شدم برای بیماری روماتیسم چنانچه متداول است طبق نظر پزشک آمپول های پنیسیلین پنادور می تا در بدنم عفونت ایجاد نشه و حالم وقیمتر نشه چنانچه می در بیماران روماتیسمی خستگی ازالانی به ویژه در ماهیچهای پا و تپش قلب در هنگام کار یا دویدن یا تند راه رفتن عادی است زورها پس از غذا اگر میخوابیدم هنگام بیدار شدن قلبم به شدت می‌تپید و ناراحت میشد هنگام خشم یا ناراحتی قلبم ناراحت میشد و به طور ناهنجاری میزد موقع خواب از کودکی دندان قروچه داشتم. وزن بدنم قبل از خامخواری حداکثر 49 کیلو بود. یکی دو بار دندان درد بسیار شدیدی گرفتم که با تجویز مقدار زیادی آنتی بیوتیک درد آن تسکین یافت. گاهی حالت استفراغ صفرا به من دست می داد و سرم به شدت درد می گرفت حدود پنشیست سال پیش به علت نفرتی که از گوشخاری پیدا کرده بودم تصمیم گرفتم گوشت را از برنامه غذایی خود حذف کنم و مدتی نیز کان را این کار را ادامه دادم ولی به علت زفی که در پاهایم احساس کردم به نزد پزشک رفتم و اون مرا به خوردن مقدار گوشت در برنامه غذایی تشویق کرد و من هم خواخناخوا دوباره به گوشت خاری برگشتم. در اسفند ماه 2532 که از ایلام به تهران آمدم برای اولین بار با موضوع خامخاری آشنا شدم پسرخالم آقای علی متتصلانی و خانمش چندی قبل از آن با خامخاری آشنا شده شروع به تجربه کرده بودند و در میان تعجب و ریشخند یا اناد فامیل و دوستان خود خامخاری می کردند حدود یه هفته پس از آشنایی با خامخاران، خامخاری را به طور صد درصد و با ایمان کامل به فلسفه آن آغاز کردم و تا کنون که یک سال و نیم از آن تاریخ میگذرد، با کمال خورسندی به آن ادامه می دهم. تا این تاریخ وزن من به حداقل و 42 کیلو رسید و اکنون کمی بیشتر شده و به حدود 45 کیلو رسیده. زربان قلبم آرومتر و راحت شده. خواب بعد از غذا در بعد از ظهرها دیگر نمیکند. خستگی عمومی و مخصوصاً خستگیاعالانی در پاهایم خیلی کم شده. خیلی کمتر عصبانی میشوم و ظرفیت کار کردنم خیلی بیشتر شده و با اینکه تا حذف کامل آثار بیماری های دیرینه و ریشهدار شاید سالها وقت لازم باشه. ولی برای من تا هم اکنون هم کافی است که حقیقت فلسفی تغذیه طبیعی را خودم تجربه کردم تا در پرتو خورشید این حقیقت، جهتگیری های برای خورسندی خود تعیین نمایم تمین نمایم نامه بعدی دانشمند ارجمند آی آرشا آوانسیان اولین پیدایش امراض در وجود بنده مربوط به سال 2510 یعنی 27 سال قبل در سنین حدود 39 سالگی بود که دچار شن یا ورم و سنگ کلیه شدم سالها در عذاب و درد و رنج به سر برده و به دکترهای متعددی در بیمارستان پهلوی در آمول و بیمارستان تهران و بیمارستان شوروی و پزشکان متخصص امراض کلیوی در تهران مراجعه می کردم. در سال 2520 در بیمارستان خصوصی حافظ، با مهدی لالزارنو بیست و روز بسری بس شدم و ضمن دفع سنگ کلیه با تشکیل شورای پزشکی و حضور چند پزشک متخصص تصمیم بران شد که کلیه چپ من باید جراحی و برداشتشه. من قبول نکردم و با دارو و دواه تسکین دهنده خود را معتاد نموده و به زندگی زجرآور ادامه دادم بعدن دوچار روماتیسمای راست از لگن خاسره تا ساوه پا و واسیر مقعد پرستاد درد اصاب ناراحتی جسمی و بدن درد و ترشی روی دل شدم و اغلب به سرماخوردگی و بسته شدن راه بینی و تنگی نفس مبتلا بودم همیشه به لباس گرم و رختخواب به چند لحافه پناه می بردم و شبها بر اثر گرمی و آتش کشیدن پاها تا سهر بیخوابی می و در موقع غذا خوردن یا صحبت کردن خیس سرخ شده و به نفس, نف و به نفس زدن متواتر می افتادم در مرداد ماه سال 2532 دچار آنفاکتوس قلبی شدم که در بیمارستان پهلوی در آمول یک ماه بستری شده و دو ماه نیز در منزل استراحت نمودم پزشکان به اصطلاح متخصص قلبی و کلیوی هر ماه دستور آزمایش‌های گوناگون و تجدید نسخه دادند که هر دفعه میزان دارو و دوا افزایش می‌یافت و دو ماه نیز در منزل استراحت نمودم پزشکان به اصطلاح متخصص قلبی و کلیوی هر ماه دستور آزمایش‌های گوناگون و تجدید نسخه دادند که هر دفعه میزان دارو و دوا افزایش یافت در سال 2534 و 2535 و آخرین بار در آبان ماه سال 2536 شدیدن دوچار آنفاکتوس انسداد مجاری ادرار تهیج بواسیر عفونی درد کلیه و غیر گردیدم و ماها در بیمارستان پهلوی آمول بستری شدم که چهار دکتر متخصص به معالجم پرداختند اما ظرف این چند سال هیچ گونه در معالجه آنها وجود نداشت برای آخرین بار در تاریخ 17 8 خانواده خانوادن من به تهران آورده و در بیمارستان مهر طبقه ششم بستری کردند آقایان دکتر توکلی و دکتر صدر ناینی متخصصین قلبی و کلیوی دکتر معالجم شدند، ولی عمل آنها همان عمل پزشکان قبلی بود و در عمل آنها چیز تازهی وجود نداشت در اینجا از طرف پزشکان و بیمارستان اعلام شد که باعثی یکی دو ماه در این بیمارستان بستری شده و سپس برای جراحی قلب کلیه بواسیر و پرساد آماده پیدا نمایم که راه نجات پزشکان و بیمارستان آشکار و سند مرگ من امضا شد لاعلاج با, ت... با نوشتن وسیعتنامه مرگاورت منتظر روز مرگ بودم که درست در روز 26 کتاب خامخاری تلیف شما در پشت تخت بیمارستان مهر به وسیله برادرم که خود صاحب آزمایشگاه نوبل در تهران بود به عنوان هدیه به دستم رسید قلبم روحم و جسمم همگی گواهی میدادند که منبع نجات خود را یافتم با پافشاری فقط صد و شست هزار ریال هزینه بیجا و غیر ضروری بیمارستان برای هیچ را پرداختم و قهرن از بیمارستان خارج شدم در تاریخ 4 9 شیش دستورات کتاب یا رساله الهام بخش را اجرا نموده و کلیه دوا و داروهای موجود را که بیش از سه هزار ریال بود به دور ریختم و ایمانم از پزشک و پزشکی آفتزا و داروهای مسموم کننده زائل شد با صد درصد خامخاری در حال حاضر شش ماه و دوازه روز است که از همه دردها و رنجها رهایی جسته و با بدنی سالم و با وزنی که از 65 کیلو به 57 و هفت گیلو آفته ساعت 6 صبح بیدار می و با چالاکی و بدن لخت فقط با یک شرط به ورزش می پردازم خوابم عادی و بدون ناراحتی ادامه دارد و در وسط حیات به سرعت چند بار می دوم و هر روز برنشات هم افسوده می شود. و نیز مطمئن هستم که به جای 66 سال به دوران 40 سالگی, به دوران 40 سالگی از لحاظ انرژیونی رو رسیدم. اکسل عملهای شفابخش در همه این مدت ادامه داشته، ولی بدون, در جورن... ولی بدون درد و رنج و زحمات و ناراحتی چون برایم روشن است که تمام ارگانیزم بدنم در حال تحولند و با خارج شدن سموم 66 ساله نیروی کازب در حال ازمهلال و توانایی سالم در حال احیا می باشد و به جای تفکر سابق که در نیستی و مرگ بود اکنون به سلامتی و عمر طولانی امیدبار شدم دوستدار شما علی مشرفی نامه بهدی سیامک متناسری، متولد 2511، شماره شناسنامه 843، صادره از تهران ساکن تهران دانشجوی سال دوم رشته موسیقی و عضو دائم جمعیت خامخاران به دین وسیله مختصرن شرح احوال خود را قبل و بعد از خامخاری اظهار میدارم این جانب بیش از یک سال و نیم از که خامخار هستم یعنی در اوایل بهمن 2532 به علت فشار بیماری های مختلف به خامخاری آوردم. حدود دو سال قبل از این تاریخ به بیماری ورم معده که با دردای متناوب همراه بود دچار شدم و پزشک که همواره مرا از خوردن سبزی و میوه خام و طبیعی من میکرد هیچ کمکی به بهبود درد من نکرد و بعد از گذشت 8 یا نه ماه فاصله این دردها کمتر و شدت آنها بیشتر شد بیخوابی خورد کننده و فشارهای عصبی نیز به آن اضافه شد که پس از مدتی قدرت هر نو فعالیت را از من گرفت در همین ایام مدت چل روز در بخش اعصاب بیمارستان روزبه به استراحت پرداختم و نه تنها حال من خوب نشد بلکه سردردای من بیشتر و تبدیل به میگرن شد که به مدت یک سال یعنی تا شروع به خامخاری طول کشید و در این مدت, در این مدت یک سال به تدریج رو به شدت گذاشت در این مدت دو بار هر بار یک ماه تا, چار روز, در بیمارست... یک ماه تا چار روز در دو بیمارستان خصوصی دیگر به مداوا پرداختم و هر بار با یک بهبودی مصنوعی و موقتی ناشی از مصرف داروهای مخدر و مسکن به خانه بازگشتم هرگاه این قرصها و داروها را استفاده می کردم به حال ضعف، خواب آلودگی و بی جسمی می و اگر از آنها استفاده نمی کردم به دردهای بدتر از اول گرفتار می شدم. سردرد، میده درد و بیخوابی مرا از پای درآورده بود و در 24 ساعت آرزوی یک ساعت خواب را داشتم تا اینکه با خامخاری و فلسفه تغذیه طبیعی آشنا شدم. دیگر هر... هرگز، جز غذای گیاهی هیچ چیز نخ... نخوردم تا آنکه در کمتر از ده روز دردایم به مقدار 90 درصد تسکین یافت و توانستم بخوابم و پس از یک ماه و نیم دیگر اثری از بیماری در وجودم نبود جز اندکی ضعف که آن هم به زودی برطرف شد به تدریج با کم کردن 20 کیلو وزن اضافه توانستم به ورزش و کار بپردازم و اکنون در سلامتی کامل به زندگی ادامه می دهم و با آگاهی از اینکه بیماران در تمام دنیا به وسیله یه تغذیه طبیعی از بیماری ها نجات پیدا کرده و میکنند همواره سپاسگزاری بیپایان خود را به آرشاویر در آوانسیان تقدیم میدارم و آرزومندم که روزی نه چندان دور افراد بشر از این کشف بزرگ تاریخی آگاه شوند و آن سپاس و قدرانی را که شایسته این مرد بزرگی است بر ایشان تقدیم کنند با تقدیم احترام و با آرزوی موفقیت برای جمعیت خامخاران نامه بعدی من در خانواده‌ای چشم به دنیا گشودم که بیماریی به نام پسوریازیس در آن بود. پدرم، برادرم و من به این بیماری دچار شدیم. نشانه این بیماری خارش‌های آزاردهنده‌ای که در اثر خاراندن به صورت لکه‌های سیاه در بدن در درمی‌آید و به تدریج تر می می‌شود و سپس پوسته پوسته می‌شود که در این حال اگر باز خارانده شود جایش زخم می‌شود. برای این بیماری داروهای کرتونی مانند پماد تریکور مصرف می‌شود. پدر من که خود پزشک بود انواع گوناگون داروها را برای معالجه بیماری خود یعنی همین بیماری مصرف کرده بود. اما نتیجه که میخواست به دست نایابرد. حتی چند بارم برای درمان به اروپا رفت و یک بارم تکه ای از گوشت او را برای آزمایش بریدند و رویش آزمایش کردند. اما در مورد خودم تا آنجا که به دارم بیماری با من بود و از داروهای گوناگون تجویزی مصرف میکردم. با وجود این بیماری را ابتدار پشت گردنم حس کردم. با داروی دکتر متخصص مدتی اثر این بیماری مرفع شد نمیدونم چه مدت گذشت که این بار بیماری در ناحیه پشت حدود کمر ظاهر شد بعد به یک چشم راست و پس از آن به پلی که چشم پایرمال داد برای چشمم از قطره آنتی, آنتی سنتی که قطره‌ای از زده خارش و ضد حساسیت و برای سایر جاهای بدنم از پماد تریکور استفاده کردم بدین طریق تا مدتی بیماری برطرف شد ولی دوباره اوت کرد مضافن اینکه این بار علاوه بر جاهای قبلی بر پشت دستم هم ظاهر شد و این وضع همچنان ادامه داشت وای به حالم اگر روزی مصرف دارو را فراموش می کردم. چنان خارشی بدنم را گرفت که لحظه امانم نمیداد. حدود یک سال و چند ماه پیش گیا خار شدم و یک سالی هم ادامه دادم در این فاصله در مجله دانشمند چیزهایی درباره خامخاری به چشمم پرد ولی چون مطالب آن کامل و پیوسته نبود چیزی درباره خامخاری دستگیرم نشد و این بود که به همان گیاخوری ساده و معمولی ادامه دادم ولی در این مدت تغییر مهمی در بیماری خود ندیدم سه ماه پیش اتفاقا کتاب خامخاری به دستم رسید که با کنجکاوی و دقت خارق العاده ای آن را خواندم و تصمیم گرفتم روش تغذیه خودمو رو عوض کنم و این تصمیم هم اجرا کردم. چند روز پس از خامخاری در یکی از مسافرتام قطره و پماد رو فراموش کردم و بدون مصرف اونا به مسافرتم ادامه دادم. با کمال تعجب دیدم که بیماری و خارج دیگه اوت نکرد. پس از حدود 20 روز که از شروع خامخاری می گذشت در بدنم به صورت ترشو قطرات چرک از مجرای ادرارم شروع شد. هر روز ده 12 قطره چرک خارج می شد ولی به تدریج حالم بهتر از روز قبل می و خود را قویتر، چابکتر و سرحالتر از روز قبل احساس می کردم علاوه بر این های لسه و دندان هایم که لق و پوسیده شده بودند بوی تعفون دندان، بواسیر، ناراحتی اصاب، تا حدودی, ریز... تا حدودی ریزش مو، سستی، ناراحتی و بیخوابی نیز از میان رفتند. از وزنم هم در ابتدا ده کیلو کاسته شد ولی اکنون پس از 3 ماه تدریجن 2 کلو به وزنم اضافه شده است. نامه از اشقی پایان نامه نامه بعدی در فروردین 2533 90 کیلو وزن داشتم و مبتلا به سردرد و روماتیسم مزمن بودم از اثرات روماتیسم دست چپ و به خوبی نمیتونستم حرکت بدم و قلبم ناراحت بود دکترها تجویز کرده بودند که حتما یه بار آمپول پنادور هزار واحد تزریق نمایم و در این مورد خیلی تاکید کردند و گفتند که اگه آمپول نامبرده تزریق نشه روماتیسم اوت خواهد کرد و برای قلب خطر, خطر جدی دارد. اکنون 18 ماهی که خامخوار مطلقم. 20 کیلو وزن کم کردم و ناراحتی قابل توجهی ندارم. درباره خامگیاخواری میگویم باش تا صبح دولتت بدمد که این هنوز از نتایج سهر است. کامبیز آبادیان به تاریخ 10 6 2534. نامه بعدی. همیشه در این فکر بودم که چرا به طور کلی بیماری فقط برای انسان وجود دارد و هیچ موجود زنده دیگری بیمار نمیشه و چرا انسان به ندرت به مرگ طبیعی میمیره اکثر انسانهای امروزی در اثر بیماری رنج میبرند و مرگ زود به سراغ انسان ها در این زمان هرچه علم پزشکی و تو های شیمیایی پیشرفت می‌کنند طول عمر انسان نیست کمتر میشه دو سال پیش برادرم کتاب خامخاری رو خرید و با خواندن آن کتاب خامخوار شد من اوایل چون از مفاد آن اطلاعی نداشتم و همچنین کلاس ششم متوسطه بودم آن کتاب را نخواندم ولی بعد از آن یک سال پیش که من آن کتاب را خواندم فهمیدم که انسان قرنهاست که در اشتباه به سر میبرد، و هرچه زمان پیش می زندگی مصنوعی تر و بیماری ها بیشتر می شود و ما از زندگی دور افتادیم. بنابراین از همان زمان خامخاری رو شروع کردم. البته قبل از خامخاری من هیچ گونه آرزهی نداشتم ولی با خامخاری نیروی جوانیم دو برابر شد و هیچگاه احساس خستگی نمی کنم و یک روزه به قله توچال می روم و اکنون از هر جوانی نیرو هستم. خامخواری انسان را عوض می‌کند و آن حالت قهرکینه و کینه و جنگی که نزد پخته‌خاران وجود دارد در خامخاران وجود ندارد. تمام جنگ‌ها و کینه ها در اثر همین پخته‌خواری است. زیرا غذایی که پخته می‌شود. اینجا 3 گذاشته شده. باشد روزی که تمام جهانیان خامخار شوند و انسان از فقر، گرسنگی و جنگ نجات یابد. داروش داریوش داریوش دیپلم طبیعی متولد 2514 تهران نامه بعدی جناب آقای آوانسیان در حدود 6 ماه پیش که با به دست آوردن کتاب خامخاری و مطالعه آن که حاوی مطالب بسیار ارزنده و آگاه کننده برای سالم زندگی کردن بود به خصوص که دریافتم امروز و ناراهتی در اثر پختخاری تصمیم گرفتم پختخاری و کنار گذاشته و در سلک خامگی خاران قرار بگیرم اکنون مدت ما هست که خامگی خورم، البته لازم به یاداوریه که, در... که من مدت 20 سال مبتلا به میگرم بودم که هر هفته یا پانزده روز یک بار گریبان گیرم بود دردی که قرار و آرام را از من رو بوده بود خوشبختانه در ششمان اخیر که به خ این درد مرموز و نامرئی دست از سرم برداشته. دیگه آن آدم مبتلا به میگره نیستم و آسایش و آسودگی که از این موضوع به من دست داده رو دست داده، مرا بر که سپاس قلبی خود را به حضور شما راهنمای خوب زندگی به شما که با صرف وقت و تحمل مخارج سنگین و وقف زندگی خود برای ارشاد و راهنمای مردم به سوی یک زندگی بدون ترس و دلحوره از عوارض ناشی از بختخاری در تلاش هستید تقدیم دارم. درود من و همه انسان که با خامگی از بسیاری از بیماری های امروز که ناشی از بخت است فاصله گرفته اند. به شما انسان ارزنده جامعه ما باد موفقیت بیشتر شما در راهی که قدم برداشته اید آرزوی قلبی همه ماست مهری ادالتی از امیراباد شمالی خیابان دوازدهم کوی کیایی کوچه مهرداد پلاک چهار تلفن 630753 نامه بعد نام من محمد و شهرتم امانی نظام آبادی شغلم کارمند و سنم 43 سال ساکن تهران هستم تا اوایل سال 2531 نوع تغذیه از لحاظ خام یا پخته برایم تفاوت نداشت و طبق معمول نظیر سایر افراد و بر حسب عادت غذای پخته میخوردم و خامخوردن من منحصر به مقداری میگو و سبزی بود در اوایل سال 2531 کم کم در میده خود احساس درد نمودم و چون روز به روز بر شدت درد افسوده میشد به اجبار به چند نفر پزشک متخصص مراجعه نمودم که پس از آزمایشات مکرر و عکس برداری تشخیص دادند که معدم لیز شده و اسنا عشرم دارای زخم حاده فشار خونم در آن موقع 16 و وزنم هفتاد کیلو بود طبق اظهار نظر پزشکان معالجم بایستی برای بهبود کامل و اقل شش سال, ت... سال تحت می بودم و زمنان بایستی از خوردن میوه خام خودداری میکردم و غذای من منحصرا گوشت و کباب بود که کمینان یا برنجم تجویز شده بود علاوه بر این بایسی یک سلسله داروهای مختلف مصرف میکردم قبل از آن هم از ناهی زانو چپ پای خود درد شدیدی میکشیدم که مرا از پیاده روی که تنها ورزش مورد علاقه می میباشد باز داشته بود در این موقع به وسیله یکی از همکاران اداری کتابی به دستم رسید که عنوان آن خامخاری بود من این کتاب را مطالعه کردم و چون مریض بودم که مطالب کتاب را با شک و تردید تلقی کردم ولی نمیدانم روی چه روی چه اصلی میل باطنی من بر انجام دستورات آن قرار گرفت و خامخاری را شروع کردم پس از چل روز خامخاری و تحمل تدریجی ناراحتی‌های جسمی ناشی از امروز ذکر شده به کلی درد میده و درد پای من برطرف شد و سلامتی خود را باز یافتم در حال حاضر وزن من به 65 کیلو و فشارخونم به 13 تقلیل یافته و کاملا احساس راحتی و سبک بالی می و از سلامتی خود کاملا خوشحالم. بدیهی از در این مورد به هیچ شک از دستورات پزشکان عمل نکرده و داروهایی را که آنها تجویز نموده بودند مصرف نکردم و برخلاف توصیه آنها شروع به خوردن میوجات، سبزیجات و انواع خوشبار کردم. بر اساس این تجربه که آن را بر روی خود امتحان کردم و برای خودم به دست آوردم، معتقدم که طبیعی ترین روش تغذیه انسان است و اگر معتقد باشیم که تمام پیشرفتهایی که در زمینای مختلف نصیب بشر شده ناشی از تجزیه و آزمایش بوده، من توصیه شما هم قبل از آنکه به ناراحتی و امراض گوناگون و وزن زیاد دچار شوید و سر شما به پزشک و دارو بیفتد از همین امروز خامخواری را شروع کنید و در صورت لزوم برای تهیه غذایی که بدون استفاده از آتش تهیه می شوند به باشگاه خامخواران مراجعه کرده و راهنمایی شوید محمد ا... محمد امانی نظام‌آبادی نامه باد آقای آوانسیان من یکی از دوستداران و طرفداران شما هستم چون از وقتی که کتاب گرانبهای های شما رو خوندم راز سلامتی و تندرستی رو کشف کردم و الان شخص سالمی میام. اکنون به زمان قبل از خامخاری میپردازم بنده محوش اشتیاق داره شما شناسامه 1954 صادره از آبادان متولد 2500 و یک هستم سالها از سردرد، میده درد و ناراحتی اعصاب رنج می بردم به چند بیمارستان روجو کردم اکثرا میگفتن ناراحتی من از اعصابه و موقعی که در آبادان بودم گفتن از بوی گاز پاله آبادانه ولی به تهرانم که اومدم سالها در تهران بودم باز هم همین آشو... همین کاسه خوابم هم کم شد و ناراحتی اعصابم شدت پیدا کرد. البته سردرد من از زمان خیلی جوانی شروع شد و با عکسبرداری برداری و معاینات مختلف نتونستم بفهمن علت سردرد و ناراحتی که میده و گاهی پا دردای شدید من چیست. بیشتر شب‌ها دستم خواب میرفت با اینکه خیلی جوان بودم ولی این ناراحتی رو داشتم. اما باور بفرمایید به جان عزیز شما دو هفته بیشتر از خامخاری من نگذشته بود احساس سبکی، راحتی و تندرستی کردم. شبها خیلی راحت به خواب میرفتم از سردرد، پا درد، ناراحتی اصاب درد معده و خواب رفتن، خواب رفتن دست خبری نبود. البته اوایل خامخاری کمی ناراحتی یا به قول شما عکس‌العمل‌های جزئی در من پیدا شد، ولی زود از بین رفت و من حالا میفهمم که تازه شخص سالم با نیرو و با نشاطی شدم. به خصوص پوست صورت من که اکثراً کدر شده و منافذی داشت، در اثر خامخاری روشن و شفاف شد. به طوری که هر کس به من میرسه، می میگفت چه جوان شدی و چه پوستت خوب شده از اینا گذشته دیگر وقت عزیزم را در آشپزخانه به سر نمیبرم و همیشه ناراحتم که ای کاش من 20 سال پیش این موضوع رو کشف کرده بودم یعنی کتاب شما رو خونده بودم ولی متاسفانه اون موقع تو تهران نبودم و شما کتابتونو به تمام شهرها نفرستاده بودید البته همین الان راضیم هم که این موضوع رو دریافتم و خودمو شاید بتونم و با خوردن مواد خام گیاهی نجات دهم همیشه برایتان آرزوی نیکی دارم و شما را یکی از عزیزترین موجودات روی زمین می دادم. برای شما خالق کتاب خامخاری آرزوی عمر طولانی می کنم و می دانم کتاب شما نجات دهنده بشر است. محوش اشتیاغ 11.6.2534 نامه بعدی آقا یابانسیان از طرف من و خانوادم و همه ها به شما و به خانواده شما درودهای فراوان میفرستم از شما خواهش می‌کنم قسمتی از وقت گرانبهای خود را به خواندن نامه من اختصاص دهید. من افتخار می‌کنم که شما برای آب و هوا و آفتاب تازه به مردم این دنیا بخشیدن از تمامی وقت و امکانات خود مزایقه نکردید. دوم فوریه 1980 وقتی با اتوبوس از ایروان به, به آب آبوویان و به خانه خود میرفتم متوجه شدم که در ردیف جلی من جوانی نشسته و کتابی رو برق میزنه. توانستم تیتر کتاب را که خامخاری بود بخوانم نام این کتاب کنجکاوی مرا چنان برانگیخت که خواستم حتما این کتابو داشته باشم صد روبل پول داشتم به این جوان پیشنهاد کردم که این کتاب را به من بفروشد ولی حاضر نشد آدرس او را گرفتم و برای دوازده روز این کتاب را قرض گرفتم تمام کتاب را از اول تا آخر با دست در یک دفتر نوشتم عکس های شما و آناهید را چاب کردم و روی میز گذاشتم که همیشه نگاه کنم آوان سیانه عزیز من متولد 1913 هستم بیماری مشخصی نداشتم ولی دارای بدن زائد با 110 کیلو وز بودم و نبزم 90 میزد فورا خامخار مطرح شدم 28 کیلو از وزنم را کم کردم و زربان قلبم از 90 به 60 رسید دو نوه من یکی 19 ماه و دیگری 5 ساله با من خامخاری میکنند من باز نشستم تصمیم گرفتم وقت خود را به تبلیغ خامخاری اختصاص بدم. از دهی به دهی می‌گردم و در هر یک پنج تا ده روز می‌مانم. با دوستان قدیمی ملاقات می‌کنم و دنبال بیمارانی می‌گردم که آنها را با خامخاری معالجه کنم. اکنون حدود ده بیمار مشغول خامخاری هستند. آنها با هم سفره پهن می‌کنند و به شما درود می‌فرستند. پزشکانی نیز هستند که بیشترشان با شما موافقند ولی گاهی سرسختانی پیدا می‌شوند که نمیخواهند حرفی بشنوند. وقتی من از مسافرت برگشتم دیدم 120 نامه جمع شده از همه جا رو دعوت می‌کنند که بروم آنها را با خامخاری آشنا کنم اکنون در آذربایجان هستم و خیال دارم به زودی به سیبری بروم و در آنجا فعالیت کنم عاشا انقلاب شما به قدری بزرگ است که همه کهنه ها باید باطل شود و حقیقت ظاهر گردد نسل آینده مجسمه طلای شما را خواهند ساخت ولی حالا آیان در مطبوعات و رادیو تلویزیون با صحبت پوچ و غلط مردم را گیج می کنند و نمی خواهند حقیقت را اعلام کنند بگذار آنها دارو بسازند و خودشان را در آن غرق کنند مردم عاقل خودشان پزشک خود میشوند و بدون کمک آنها سالم زندگی می کنند. با تقدیم احترام سین سین هاروتونیان پایان کتاب